نیما شه سواری دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخاند. قشی را به آزادگی دعوت کند. موجبات آگاهی برخی گردد و این چنین افکارش را نشر دهد. برخود نه این دانست تا به واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد. هدف و آرمان من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن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 من بودم و خیالی بی انتها و احساسات زد و نقیزی که لحظه رهایم رحایم نمی کرد. حاکم بر این حیعت گاه مرا به وحشت می انداخت و شیرینی پیروزی را به کامم تلخ می کرد و گاه نگاه هایی که پر بود از تنفر و انتقام. هرکس در سر داری به پا داشته و در حال اعدام کسی بود و از شادی این کشتار سرمست و مدهوش می شد. سخنرانی هایی که از آن بوی خون به مشام می رسید تصویر ننگینی را به ذهنم تدایی می کرد که همان تکرار تاریخ بود در این میان کسانی هم بودند که هم صدای من باشند و امیدشان جلوگیری از این فاجعه باشد اما در میان این هیئت گم و ناپیدا به حساب می آمدند صدایی رشته افکارم را درید و به خود آمدم تحمین رزمارا حال زمان سخنرانی من بود تا در این شرایط پیروز سخنی برانم. اما این پیروزی میتوانست به شکست بیانجامد و آرمانهای چندین ساله را تباه سازد. در سر هزاران سوال داشتم و این ذهن آشفته یاری نمیداد تا بر خود مسلط شوم. در این سالیان دور هماره در چنین کارزارهایی بودم. حال زمان به سمر نشاندن هایم بود، حال میتوانست آزادی نهادینه شود و یا به ازماهلال رود هم میهنان یاران و هم رزمان سالها جنگیدیم در راه رسیدن به آزادی حال در شلف رسیدن به این والاگهر گیتی هستیم گلوگاه تاریخی ما اینجاست به رهایی نخواهیم رسید مگر با احترام به رهایی من نیز چون شما رنجهای بسیار کشیدم شاید برخی از شما موهختر نسبت به من باشید و دلهایتان پر از کینه و انتقام باشد من هم چون شما هماره در فکر انتقام بودم اما نه انتقامی که با آن رهایی را مدفون کنم انتقام ما آزادیست رسیدن به جامعه ای آزاد نه برای خیشتن که برای همه من از تمام دلاوران آزادی خواه خواستار عفو بخشش عمومی برای آنان هستم تا با این کار آزادی را با مدد از آزادی شروع کنیم و با احترام به این تقدس عظیم به همگان بیاموزیم که آزادی در آزادی بخشیدن معنا خواهد داشت آن شور و اشتیاق بیپایان من در بین این سخنان با صدای بیتوان تشویق هزار به یعص مبدل شد هرچند که قبل از آمدم به دینجا نیز بر آن واقف بودم اما همین تلاش بود که مرا تا به رساند <تصفيق> کتاب اثر سواری بخش دوم مردی بود و خاکی که بر اجنبان خوش و بر مالکان ناخوش مردمانی که به سختی کار میکردند و بردهای بیش به حساب نمی آمدند. چه سخت است در خانه خود برده باشی این سخنی بود که هماره پدرمان را بر لب داشت و کودکی خود را به یاد می آورد پدر زاده سرای نفت و خون بود آنجا که بردگی عادت بود و سعمار قدرت حاکم و فرمانروا روا شاید همین بود که از او هماره یک میهمپره از ساخت که دلش مالا مال از تنفر بر بیگانگان باشد. مردی که هرچه نامی از ایران بران برایش زیبا و آنچه غیر از ایران نازیباست. در زندگی بی بیپایانی داشت که یکی از آنها مدد نرساندن به اصفه خود محمد مصدق بود. هماره پر از اندوه که چرا در آن دوران خورد سال بوده و نتوانسته دوشادوش ایران پرستان بجنگد. و زنی که در سرای غیرت زاده گشت، غیرتی که پیوند در افراط و تفرید دارد و گاه مسبب زیبایی ها و گاه زشتی هاست. زنی که دلباخته خواندن و دانستن است و در راه آن میجنگد و به پیکار با عرف و سنت می‌رود. از تبریز راهی تهران میشود تا بداند و بر دیگران نیز بیاموزد. خواندن تاریخ مدد است و درک کردن آن خیال خیال و زندگی این دو تن برایم گویای تاریخ سرزمینی که از آنم و درانم چه بسیار داستانها شنیدم از آن روزگار و پدر مادری که آن را از زبان خود نقل کردند تاریخی که سخن از قدرت و سردم داران که سخن از انسان و انسانیت داشت تاریخی که عبر قدرت آن است که به جنگ عرف و خانواده رفته و به آرمان خود چنگ زده است مردی که نه قدرتی دارد و نه مقامی ولی او و همثال او تاریخ نگاشتند و دیگران بهره جستند. پدر در دودمانی زاده گشت که نه دودمان بود و نه خاندان که رعیت بود. پدرش مردی بود که زیر یوق استعمار بنده بود و در دل آزاد میجنگید. نه آن جنگی که خون باشد که برای رعای خود می جنگید. روایا خاندان همسر یا کنیست، فرزند یا بنده برای نان میجنگید و برای زندگی و انتهایش کار بود یا جنگ نجوای مصدق برای پدر و پدرش فریاد بود و رهایی و همین عشق بیپایان پدر گشت و آرمان رهایی از هرچه نامش بیگانه باشد چه تصویری بر ذهن پدر و پدران مادر و مادران تدایی می آنگاه که اجنبی دست مدد به سویش دراز می کرد. مدد هم رنگ ظلم داشت و ظلم هم رنگی از مدد. بانوی ما هم به جنگ استعمار رفته بود، نه بر اجنبان، که بر خیشتن و حال که از چنگال آنان رهایی یافته بود، سرمه است از پیروزی رزم را به پایان رسانده و گامها را پیروز مندانه به سوی سعادت بر پدر و آن عشق بیپایان پایان در گروی رسیدن به پایتخت بود و حال هر دوی آنان در یک راه گام برمی‌داشتند و محصل در یک دانشسرا بودند دو مخالفی که از دید دیگران هیچگاه طلاقی با یکدیگر نداشتند و در حیرت دلباخته هم بودند ما در جانانه بر تاج و تخت عشق می‌ورزید و آنان را دلیلی بر پیروزی خیش می‌پنداشت آنان را مالک بر رهایی عرف و شر و سنت‌های هزاران ساله می‌دانست که تاریخ و فرهنگ را دگرگون ساختند و زن را مردیت دادند و پدری که دلش پر از نفرت از سلطنت آنان را دست نشانده‌ی اجنبی می‌پنداشت و همانان را عامل ننگ و استبداد می‌دید این دونگرش سیاسی مجزا که هیچگاه در کنار هم نبودند و نخواهند آمد فارغ از آرمان و آرزو و اعتقاد شیفته یکدیگر بودند و طعنه ای و لیلی و مجنون خسرو و شیرین زده و یکدیگر را میپرستیدند پدر و مادرم در یک چیز مشترک و بران ایمان داشتند که عشق و آرمان هر دو در میانش دفن شد و چیزی جز عادت برایشان نماند نه در آن سالیانی که هر کدام در دو جبهه در رزم بودند و برای عشق و اعتقاد شمشیر میزدند آن روزگار عادت نبود و آنان دلشاد و سرمست بر ابر آرزو سوار میتاختند و پس از چندین سال دیگر چیزی نمان تا بجنگند و عادت بود عادت مرگ بود و مرگ تشخیص از عشق و آرمانشان سالیانی هم دیگر را دیدند و تشنه بر یکدیگر زیستند و آنگاه که با هم در آمدند چیزی جز عادت میانشان نماند چه بسیار برایم گفتند از مجادلت که هیچ توان قانه کردن یکدیگر نبود و ایمان بر آرمان از گفت و شنود باز گرفتشان پدر گفت و مادر نشنید مادر گفت و پدر نشنید و کس گفت و دنیای نشنید. مادر هماره ادراک داشت که من پیروزم و پدر به آرمان پیروزی جنگید. زمان در حال گذر بود و آنان بیش از پیش دل در گروه مهر یکدیگر و سر دور و دورتر از آرمانی مشترک لحظهای با هم ندیدند، ولیکن هماره هم دیدند. پدر از ایران رفت و مادر به خاک خیش پایبند ماند و آتش عشق و دوری خرمن‌ها سوزان آنران را بیش از پیش وابسته‌ی یکدیگر کرد. معادلهی که منطق در آن معنا و دل فرمان آن است. حال پدر بود و صحفی از همقطاران که در خاک بیگانه طلب رهایی خاک خیش دارند. جمعی از برنایان ایران، همان دانش که مخبر ناگواری های ایران هند، همانان که شیفته رهایی و هنجره ایرانیان در بندند، چه تاریخ و تکراری که بر بام میهن گذشت و این خاک در سوگ بدتر از بد به ازانش است و ازلت پیشه کرد. تقابلی از دو اندیشه که دلبسته یکدیگرند و جدا هم هر کدام در اندیشه خود سازنده ایرانی مختدر یکی آن زن که در خاک همان سرای کهن مشغول خواندن و خاننده کردن است و آن مرد که دورتر از سرای در اندیشه دگرگونی و باسازی ایران است. روزگاران میگذرد و این دو عاشق هر کدام در پی راضی کردن یکدیگرند فارغ زندیشه ها و آرمان ها به آن جنگ مشترک و سال با یکدیگر میرزمند اما انتها و ابتدای این سخنان باز هم بازگشت بر همان آرمان هاست که راه را بر آنان تنگ و باریک میگرداند مردگاه آجزانه و گاه متکبرانه خواستار آمدن زن است وزن زن هماره سخن از بازگشتن مرد به خاک وطن دارد این جنگی که در انتها پیروزش شادمان خواهد بود و مغلوبش به شیرینی وسال سرخوش خواهد شد به ناگه این رزم نابرابر شد و مرد مجبور به تمکین به شکست مادر بود آن تکرار داستان همیشگی که بوی تهدید و گاه بوی عشق می داد وسال با مردی دیگر که خانواده بران پافشارند حال پدر این شکست برای شمعی از پیروزی بود بازگشت و به وسال یار رسید. چه بسیار برایم از آن روزگاران گفتند و من به تکرار مثالش را دیدم و شنیدم. زمان بسیاری از این روزگار نگذشت که تشریع رهایی نیز فرا رسید و آن دو دلداده در زمانی نچندان طولانی دفن عشق و آرمان را به چشم دیدند. از پدر گفتم و پشیمانی هایش نخوست همان خورتسالی و مصدق بود و بزرگترینش آن روزگاران تلخ ایران زمین. آن روزگارانی که ایران و آزادی دفت شد. ایرانیانی که به جای زاری خندیدند و به جای سوک شادمان گشتند. آن روزگارانی که ایران به دست هجنبان افتاد و معرکه استقلال ایران زمین ایرانیان را سوزاند. پدر بود و پشیمانی که گهگاه را راز خود منزجر می کرد. برخود شک می کرد و آرزوی حضور در کنار مصدق به پشیمانی بدل می شد که من کیستم همان کس که ایمان نفرت ز شاه چشمانم را بر آزادی بست و در سوی آزادی هل کردم من بودم و تکرار تاریخ که این بار نه اجنبان که خودان را رقم زدیم بر منجی آزادی آن روزگار ایران تاختیم و گردن زیر پای ایرانی بدتر از صد اجنبی نهادیم پدر بود و شبهه که اگر مصدق بود بازمند زیر هوای چه کسی مدفون می شدم. پدر بود و یاد سخنهای آن مرد وارسه آن شاگرد مکتب عشق و ایمان همان مرق طوفان آن که دست نشانده دیدنش و دست بوسان ندیدند که به چه کسی چه چیز فروختند. گاه به خود لعنت می گاه خود را تیمار می کرد که آری، نفرت شاه چشمانم را بست و از من بزرگترها مرا به این شاه انداختند که ما چنین زاده گشتیم و در وهم تقیان فرمان بردیم آن روزگاران اشغال ایران مرگ آزادی مردمان شاد زیستند و از کشتار و خون سرمست هلهله کشیدند و چه سرانجامی بداردیم دیوانگی ما در حال در فکر ترک ایران بود و رستن از این کارزار و جنگی باز میان همان آشق و معشوخ که پیروز و بازندش دیگر در سوگ نشست. ادالت روزگار را ببین و به خود بیا که مسهکتر از این ادالت همان عدالت و عدل دیو روگان و دیو پرسان است که به سوگ می نشاند. به صدای ادالت با همانان نجوای عدالت زردهی و سرآخر ندانی که این بازی واژگان به دل و دنیایت ساخت ناامیدی را. این بار پیروز سرمست پدر بود و مادر تمکین کننده خواستار پدر که این پیروزی ماست و پیروزی و دیگر واژگان معناز خود رخت بست و زندگی بشد مرگ و مرگ شد زندگی. پدر و پدرانمان من مست از این باده تا به کیسی نزن بر علم اجنبان و تو گو بیداری و من خواب هم به چشمان دیده در خواب مندم روزنامه بود و کشتارگاه شادی بود و دیوانگی مادر ترسان و پدر خوشحال روزگاران گذر کرد و چیزی نماند جز همان قتل و کشتار و خونابه مادر آنقدر از آن روزگاران نفرت دارد که هیچگاه سخن از آن به میان نیاورد و پدر هرگاه بگوید خود را خجل بیند چه ویران سرایی بود و ویران تر شد آن کشتارها و فرارها و غارتها بر این مردمان کم آمد و اجنبی فارغ از آن ایرانی بدتر از اجنبی بر ایران یورش برد حال پدر فارغ از هر آرمان و باور به میدان رزم وارد شد جنگ که حال نبا آن معنای سابق کشتار بود و مردن دفاع بود و حمله خون بود و خون ریختن و پدر عاشق بر ایران و پر نفرت از اجنبان سراسیم خود را در آن دید حال دیگر فارغ از هر چیز و هر کس برای ایران میجنگید و دفاع از آن چه برای او ایران تعریف میشد، که همان خاک و مردم در گروی یکدیگر بود او بود و میدان رزم یادان روزگاران قدیم آن خاک که عزان آن بود و پدر در آن میجنگید و پدران بسیار که جنگیدند که روزگارانی بود آن را هم به لجن بردند پدر و مادر حال بار دیگر خود را در کنار یک میدیدند، پدر در میدان و به تیر و ترکش مادر دوشادوش او مدد جوی جانهای جان ایرانیان یادگاران روزگاران برای پدر بسیار است. جه داستان برایم سرود که گاه بوی افسانه داشت و گاه تعنی بر واقعیت میزد. جز این داستانها تنش نیز یادگارانی از آن روزگاران به خود داشت و مادر که کم سخن میگفت از آن دیر بازان هماره به دل لابه سر زمانی از جنگ گذشته بود دیگر بر پدر و مادر چیزی باقی نبود نان تراوت و جوانی نه آن آرمان و آرزوها نه هیچ که حادثه آنان را باز تولد داد همان رهایی و آزادی و این بار خاک آزاد گشتهای از ایرانیان که سببش همان بومیان بودند و آن جان گذشتگان و نه مصادره رهایی به کام عجان پرسان این رهایی گرچه آنان را باز تولد داد ولیکن بار دیگر میراند آنجا که خون پر خون میخواهد و جنگ طلب جنگ پدر و مادر حال بار دیگر هم صدا باز گشتند و جنگ را به جنگ طلبان باز پستادند و حال پدر و چه بسیار چون پدران پیش حال و آینده از آن باده جانکاه هوشیار شدند چه مانده بر آن مرد و زنی که عمری جنگیدند و هیچ جز اسارت آیدشان نشد مادر نوای رفتن سرداد و پدر سرود ماندن و این بار بی جنگ و مبارزه که جانی برای آنان نبود یک صدا ماندند و اسارت وطن را رهایی دور از وطن خریدند پدر و یاد آن مرد پیر همان کس که گهگاه خود را خیانتکار به آرمانش میدید او را بران داشت تا دا فارغ از جنگ و آرمان به گوشهی بخزد و زندگی را چو بیشتر انسانها به سر کند او بود و دشت بی انتهای مازند، سرای و زیبای و ترنم، خانه ی زمینی و عشقی زمین و, عشق و هم زندگی، دیگر دور شده بود. هیچ از آن تراوت و آرمان به جان نمانده بود و مادر تنها سودایش آموختن بر دیگران بود. پدر سکوت و آرامش را می تلبید و کار هم همان دیدن نفس و بهر آن کشیدن بود. رهایی دف شد و عشق سر برافراشت. عشق نیست شاید که عادت شد سمره این عشق و دوستاش تنها من بودم وارس و یا نمیدانم. اما من نیست چه بسیار انسانهای دیگر چشم بر جهان گشودم و زندگی بدین سان آن زیبایی بینه مازند برایم آغاز گشت کتاب تحمینه اثر نیماش احساباری بخش سوم چه چیز از کودکی به یاد دارم؟ چ دیگر کودکان کم و اندک و گاه خصه هایی که خود نمیدانم از سخنان دیگران است و یا به حافظه یک جان من. پدر و مادر بسیار برایم گفتند از آن روزی که به دنیا آمدم از آن روز پاییز از آن فصل خزان که زیباییش متوشگر است. آن فصل که آن را دوست دارم. از آن روزی که مادر و پدرم نیز همتای من دیگر بار زاده شدند از دیدنم به وجد آمدند اشک ریختند و جوانه زدند پدر و مادر بهترین روز زندگانی خیش را همان میدانند و آنان بودند که پس از فراغت بر جان خیش بر فکر زندگی دادند بر دیگری شدند آن روز که آرمان بر سر داشتند و میرز می‌دادند بر آن پایدار و دیگری را به میدان نکشیدند و حال که دیگر آرمانی نبود مرا زندگی بخشیدند و خود را وقف پیراستن و آراستن من کردند چه ستودنی چنین والدانی که نه از بحر فراغ که با تعقل و مهر زندگی می دهند و خود را مسئول و پایبند بران می دانند پدر و مادری که نه بیمانند ولی کن کم مانندند آنان که باز زایده شدند باز آشق و این بار نه عشقی که به عادت منجر شود این بار عشقی که از وجود خیشتنشان جوشید و بر دیگری خروشید که زندار به زندگی بخشیدنند کودکی من امان بود با دوران جنگ در پاییز 62 متولد شدم و میتوان بر من نیز نسل جنگ نامید کودک بودم و هیچ به یاد ندارم جز سخنان پدر و مادر که گاه آن را تجسم میکنم و خود نمیدانم که چیزی از آن به خاطر دارم و این خاطرات آن دوست که بر ذهن من نهادی نگشته است سخن از جیره و فقر مردمان آواره به میهمانی آمدنهای اجباری خبر مرگ و خون و جر و مین و آتش پناهگاه و اسارت و چه بسیار دیگر خاطرات که چون تاریخ برایم همان ادراک از خیال است پدر مادر بود و عشق بی پایان آنان بر من که نگفته هم توان ادراک آن را دارم و هاماره آنان را چون دور روزگاران دیدم شش سال از تولدم گذشته بود حال دیگر جنگ پایان یافته و مسبب به فلاکت های ایران زمین در گذشته بود این سخنی بود که پدر و مادرم باز در آن مشترک بودند و این گونه بر این تاریخ نام نهادند این روز در خاطرم به خوبی نقش بسته آن را به خاطر می آورم. چرا که آن طفل 6 ساله برای نخستین بار گوش بر مشاجره پدر و مادر سپرد آیا از آن گذشته نیز با یکدیگر نزاع کرده بودند نمیدانم شاید بلی اما در خاطر من چیزی از آن روزگار نقش نبسته این مجادله لیک همواره همراه من است در اتاقم نشسته بودم در حال های کودکانه صدایی مرا به خود آورد از جای برخاستم و درب را گشودم این مادر بود و دورتر پدر که با صدای بلند با یکدیگر سخن میگفتند. نمیدانم این خاطره تا چه اندازه زایده ذهن من و چه اندازه حقیقت است که شاید گاه خیش سخنهایی بر آن و از آن کاستم اما بر این مُطرفم که حال جنگ میان این دو تن را به نظاره نشسته بودم دوست داشتم خیش را به میان اندازم و را به پایان خوش برسانم اما ترس و صدای فریادهای گوشخراش آنان مرا پس میزد. من نیز دران سالیان پیش و پس از آن بارها مجادله کردم اما هیچ کدام در خاطرم اینگونه نقش نبسته است آن زن را همچون خود می دیدم که به نزا با کودکی که از غذا پسر همسایه نیز هست می پردازد آن روز که من و دیگر دختران به گرد هم نشسته بودیم و بازی می کردیم. باران زیبایی که روز پیش مازند را معطر کرده بود جای خیش را به آفتاب سوزان داده و در آن زیبایی وسب میان علفزاری سرمست به گرد هم نشسته ایم. مازند و زمین های گلدارش که صغات آن باران زیباست، میزبان پسران یاقی و سرکش است، تو از گل بر آنجا خوش کرده است، اسباب شادی و مسرت آنان است. و این دو جبهه که گاه زیر چشمی به یکدیگر می نگرند چون ماهی زیبا و دریای مواج که لازم و ملزوم یکتیگرند هرگاه اسباب مسرتشان به روزمرگی بدل شد با تنه و جنگی خود را باز ساختند آن روز به ناگه جنگی میان ما در گرفت که آغازگرش به سران بودند آن توپ کراوی و گلی منزل کند در میان ما و من افروخته به سوی فرماندار یاغیان سفارایی کنم. من گویم و آن گوید. سربازانمان من دمادم ریسه میروند این جنگ و ده ها جنگ دیگر که گاه با سرک آنان و گاه با رندی ما آغاز می هیچگاه هیچ گاه مغلوب و پیروزی نداشت. هر کس پس از جنگ میان یاران خیش رجز می و در تدارک حمله دیگری بر گاه ما و آنان دو جپه مشترک می شدیم به جنگ با عجبان که هم دختران و پسران چندی دورتر از ما بودند می رفتیم و چه بسیار از یکدیگر مدد می جستیم روزی که خود را تنها به میدان می دیدیم پریشان احوال آنان می و شاید آنان نیز به همین منوال اما حال من بودم و جنگ میان مرد و زنی که هر دو را عاشقانه دوست داشتم و حاضر برفتن. در جپه یکی از آنان نبودم فریادهای آنان گوش خراش بود و مثالی چون جنگهای آن روزگاران ما بود ولی کن دگر هیچ شباهتی به صحبتهای ما نداشت سخن ما که انتهایش به آینهی ختم میشد و آنان که برف روخته سخن میگفتند و گاه یکی ساکت و دیگری مسکوت می ماند ولی کن میان ما سکوتی نبود که گهگاه هر دو جبهه همزمان میگفتند و میشنیدند. چه در خاطر ایمان مانده است از آن روز فریاد های مادر این قمسرا جای زیستن نیست و تو آینده این تف را تباه خواسته های خیش ساخته ای در فریاد که حاضر به زیر چتر دشمن رفتن نیستم و تو از من میخواهی که خود را به دامان آن اجنبان بیاندازم. مادر فریاد که بیدار شو از این خواب کدام اجنب سرای ما لانه اجنبان است و پدر با درد و ناله که این خاک من است آن را برای یغما تنها نمیگذارم من از این سرایم و در این سرا خواهم مرد مادر که صدایش تنین انداز طعنه و کنایه بود رو به آن مرد پیر کرد و گفت آن روز که ایران را از اجنبان توهی کردی برای نسل ما که نه آیندگان نیز بس است پدر بود و سکوتی مرگبار و مادر که فریاد سالیان از دل هزاران نفر را بر آن مرد فرتوت آوار می کرد گفت به دنبال چه بودی استقلال حال آن را دریاب با استقلال تجنبان را راندی و اجنب به تخت نشاندی به دنبال رهایی بودی و دخالت اخشار در سیاست ترهازیستن را هم از آنان رو بودی پدر برا شفت و فریاد که این آتش سوزان اجنب پرسان است که ملتی را تابدین سان دور از حقیقت نگاه داشت صدا راز فریاد رو پاسخ سخن را به صرب داد و با چکمه در دهان معترس گفت هاری همین بود که میدان بر این تازی پرستان داد و میدان ایران پرستان را ترک کرد مادر به هوا آمد و فریاد زد آنگاه که سخن از نعلین بود کدام این را برگزیدی تو ایران را سوزاندی و به اسارت کشیدی. پدر بود و چشمانی گریان و نگاهی بران زن که حال نه عشق که جنگ میانشان حکم فرماست؟ کجا آسان محبت که تیشه از دست این زن برو باید مادر با صدای آهسته بر پدر سر سرداد که جدل ما بی است بیا و این بار سخن مرا پند گیر سرنوشت دخترت را دوباره بساز خشت تباهی بر اینجا نباشت پدر صدا در گلو نهاد و فریاد زد ایران را ترک نخواهم کرد در این خاک خواهم مرد مادر همتای او به صدا در آمد. که سایه خیش را از من و دخترم برکن و بگذار آینده او را به آرامش بگذارم و تباه نباشد حال این تهمینه کوچک سخن برایش چه سنگین بود سخن از گذشتن ز ترک پدر که فکرش نیز برایم چون مرگ دردناک بود دیگر خود را جلوی آن در ندیدم به روی تختی زجه زدم و باز صدای فریاد آنان لرزه بر تنم انداخت همان فریاد ها و همان سخنان زمان کوتاهی گذر کرد که پدر به ناله گفت تهمینه کجاست؟ پس از فریادهایی هایی که برای من بود حال به یاد من افتادند به سوی اتاقی که در آن خزیده بودم آمدند و هر دو عشقای مرا دیدند داستان سرودند که این بازی بیش نبوده و ما نزانه می کردیم و من یک صدا فریاد می زدم من هر دوی شما را می خواهم. پدر مرا در آغوش گرفت و گریه سرداد و مادر به حیرت بر ما می نگریست. آن عشقا پس از چندی مادر را نیز به خود خواند. او هم به آغوش ما زجه داد. این نخستین بار و آخرین بار سخن از جدایی بود. آنان دانستند که با جدایی خیش نه بر عشق میان خود که حتی به عشق من نیز خیانت می کنند. چه بسیار به مادر فکر کردم و او را ستودم که عاشقانه مرا دوست داشت و پدری که خود را جزی از من دید هرچند که مادر نه از برای خیش که برای من ترک دیار در سر داشت ولی چند عمر به تلف ورد و در این خاک مازده اسارت کشید که دنیای من اسارت است و حال برای برخی رهایی این سرا و گاه آن سراست نخستین روز رفتن به مدرسه برایم ای بی تکرار است آن روز بارانی که اطرش روز و امروز مرا حوش زیبایی می کند مادری کنارم بود و قصه از زیبایی های مدرسه به میان حیاتی آمدین که مملو از مادران و دختران و کودکان بود باران بر سرمان فرود می آمد سخنانی به گوشمان می رسید همگان را به داخل ساختمان پذیرا گشتند و به درون اتاق بزرگی به چشمان روزگاران کودکی من مادر را به سفتی در آغوش گرفتم. خیالی برای جدایی در سر نداشتم و حالان که مادر نجوا می داد که حال زمان است. چه کودکانی که گریه سر می دهند و با نال سخن می گویند؟ نه آن روز و خاطره من. هوای گریه در سر ندارم. در جستجوی کسی چون خود به دختران بیشمار مینگرم. در انتهای آن اتاق بزرگ دختری نشسته و بر من نگاه می دارد نه اشکی به چشم دارد و نه ناله داده است مسکوت به نظاره نشیده و چون من حیران است پس از بوسهی به مادر به سوی او رهسپار پار می و در کنارش منزل می کنم. نگاهی به یکدیگر میکنیم و حال نام آن را به نشانه شروع دوستی جویا می شدم. نامش شاله است از کمال. به نشان اثبات این دوستی دست بر اسبابش میبرد و مدادی قرمز رنگ به من هدیه می دهد و من نیز در پاسخ بر این بخشندگی اسبابی به او هدیه می دهم که خود به خاطر ندارم و امید بران که جاله آن را به خاطر آورد این شروع آن پنج سالی بود که در کنار ژاله و دیگران سال گذراندم و خواندن دانستم آن آموزگار در خاطرم هماره خواهد ماند نگاهی مهربان داشت و فربه بود که از آن روزگار و به واسطه او چنین بانوانی را مهربان میپندارم چه آرام سخن می میگفت شکیبا بود دگر معلمان آن روزگار به خاطرم نیست جز آن زنی که هماره خدکشی همراه داشت کسی را با آن معاخزه نمی کرد ولی به واسطه وجود آن اباحتی بر خود و ترسی بر دیگران مستولی میشد نام هر دو در خاطرم هست و یادگارشان سازنده آینده من است. خاطرات بسیار از آن روزگاران در سر دارم بیشترشان به آن زمانی باز می گردد که ما و دیگر کودکان در حال استراحت بودیم و تا لحظاتی بعد به همان اتاق رهست پار می شدیم به جز جاله که نخستین دوست من بود دو تن دیگر نیز با من عهد دوستی بستند که به درستی در خاطرم نقش نبستند اما جالب و آن روزگار هماره در خاطرم است دختری مهربان که مادری شبیه به خیش داشت شباهت آن دو هر کس را مجذوب می کرد و به سادگی بران می شد که این دو مادر و دختر هستند به همراه مادر به خانهشان میرفتیم می رفتیم و گاه آنان به خانه ما گاهی من به تنهایی می و او به تنهایی می آمد. پدرش در آن جنگ خانمان سوز کشته شده بود و یادگارش عکسی بر دیوار بود که جاله آشغانه آن را دوست داشت آن روز تلخ جاله هیچگاه از خاطرم محف نمی شود که جمعی از دختران به دورش جمع شدند و در پدرانشان پدرانشان سخنها گفتند نگاه جاله که در خود خزیده بود مرا بران داشت که از این یار مهربان دفاع کنم باز میدان جنگی بود من در این کارزار و دختران و دشمنان گفتند و بافتند تا من به سخن آمدم. هرکس سخنی می گفت و نوبت را به بعدی می سپرد. حال دیگر نوبت من بود و تصویر کردن مردی را که پدرم بود. سخن از آن مردی کردم که برای پدران شما زنده بود و برای پدران شما مرده بود. آنچنان سخن گفتم و همه به وجد آمدند و گوش بر من سپردند، که هرکز آرزوی داشتن چنین پدری بر سر پروراند و به ناگه سخن از آن گفتم که این پدر جاله است و نه پدر من آن چهره خزیده و در همه جاله شکفت و مهر میانمان من افزون شد جاله کم سخن می گفت و من پرتوان در سخن گفتم بودم گاه جاله سخن می گفت و همگان را به حیرت وامی داشت چه بسیار که او پوشبان من بود و چه بسیار که من پول عمر این دوستی به درازا نکشید. آنگاه که فارغ از دبستان شدیم و خود را برای رسیدن به دوره جدیدی از آموختن آماده کردیم از مازند کوچ کردند و راهی سرای دیگری شدند. دوران ناامیدی بود و سرخوردگی. آن یار رفته بود و من تنها در انتظار رفتن به مدرسه ای تازه بودم. دیگر مادری در کنارم نبود و بارانی نمی آمد. ولیکن مرا به یاد همان روزگاران پیش میانداخت. آن روز و باران و مادر و ژاله. این بار صدای ناله و شیون کلاس را پر نکرده بود، ولی عده ای مقموم و تنها در گوشه خزیده بودند. من نیز خود را در میان آن اتاق دیدم، نه تدبیر که این بار به قرعه کسی را انتخاب کردم و کنار او منزل گزیدم. دختری که ساکت به گوشهای لمیده بود و بسیار آرام به نظر می رسید. نامش را جویا شدم و این شروع دوستی من با لیلا بود. دختری که چشمان گیرایی داشت و آدمی را بران می داشت تا چند باری بران خیره شود. روزگاران از پی هم می گذشت و ما با یکدیگر بیش از پیش همراه می شودیم. معلمی که هیچگاه از این دوران به خاطر من پاک نخواهد شد. آن کسی بود که بعدها سخن پیرامونش بسیار گفته میشد و سختترین ترین کار برگزیدن سخن راست و دروغ از میان آن بود. او که معلم درس اجتماع و انسان بود سخنهای بسیار میزد و حال که بران فکر می کنم چیز بسیار از آن به خاطر نمی آورم. اما این را به خوبی به خاطر دارم که ناگهان مفقود شد چون آبی به درون زمین رفت. ادهی می گفتند که خود بر این رفتن رضا بود و رفت و گاه میگفتند گفتند که به مسائبش دوچار شد ناخواسته کنج عضلت در پیش گرفت گاه سخن از این بالاتر می رفت و زمزمه ای از زندان به گوش می رسید من به پدر پناه برده از او جویای این حال و احوال می شدم اونی سخنان بسیار برایم میگفت گفت و گاه مادر به میان می آمد خاطره تلخان شش سالگی دوباره برایم تجسم می شد. امروز که بران آموزگار میاندیشم، چه بسیار سخنان را از زبان او به میان میآورم، چه چه داستانهایی که خود در بابش میسرایم آن کس که سخن از برای فهماندن روزگار تلخ ایرانیان کرد و تومه دستان دشمن ایران زمین شد. جزو آموزگاری به ذهنم نیست. تنها یادگارشان دانستن است. اما لیلا که جای ژاله را برایم پر می کرد نیز به ناگاه مفقود شد و بار دیگر مرا تنها و پر درد رها کرد سخن باب او فراتر از آن معلم بود و مرا بیش از سرنوشت آموزگار غمگین می کرد که نمعلمم که یار مهربانم نیست که من تنهایم پس از آن حادثه هماره واجه ای مرا به فکر فرو برد آن واجه قریب بهایی بود. به سوی پدر روان شدم و جستن از او حقیقت را به پیش بردم. راه به سرانجام نداشت و مادر پاسخی برمان نرساند. ولی کمپس از آن اتفاق بران شدم تا بیش از پیش بدانم و سرنوشت لیلا این دوست را جویا شوم. حال تنها در میان آن سخنان و آن روزگارم به این نتیجه میرسم که خانواده لیلا به دین بهایت باور داشتند. و پس از دستگیری پدر و محاکمه و سپری کردن آن زندان بیگناهی ایران را بدرود و خاک بر اجنب پرستان خالی کردند. به خاطر دارم که پیش از ناپدید شدن لیلا گاه او را در میان دختران میافتم که بر او کناه میزدند. من نیز توان سخن گفتن ندارم که نمیدانم سر کلاف کجاست. در پی چه میگردند و حال که لیلا خود نیز نمیداند. و دیگران بهتر از او نه میدانند که میگویند. گذر از لیلا و چه بسیار چون لیلاها چه سخت است. آن روز که دیگر طفل و کودک نه که بارور بودم و شنیدم. نوزاد هجده ماهی به زندان است و مادر بهادین گریستم و یادان مهربان یار کردم. آن همچون من ندانست و نداند جنگ بر سر چیست و سوخت. کتاب تخمینه اثر نیما شه بخش چهارم حال دیگر در دبیرستان بودم پدر هماره بانو خطابم میکرد و مادر که نگاهش پر از تحسین بود گذر زمان چو دیگر روزگاران بود من همان کودکم که حال نوجوان شدم رشته آن روزمرگی گسست من خود را در سیاه چال دیدم حال و هر زمان که آن روزگار را به خاطر می آورم سؤال و صد سؤال ذهنم را به چالش می کشد من و آن خیابان و آن انسانها که زیستیم و بردوار گذران کردیم آن تن را به یاد دارم و آن دشنام ها و فریاد و گیجی ما که در خواب ماندیم بیش از این نیز بارها دیدم و گذشتم و حال خود به آن مبتلا بودم توان گذر هم نبود ایستادن و نگاهی به تو و سخن گفتن از تحمیل بندگی و سرساییدن چه بسیار انسانها. پدر را به خاطر دارم و فریادهایش که به دشنام پاسخ شد و من که بی سخن دشنام شنیدم به یاد مادر بودم و آن سخنان و آن شش سالگی و حق زیستن چه آن را هم رو بودند میان دختران و زنان بسیار بودم که برخی چون من بر آن درد بردگی مبتلا من حیران و آنان گریان که قپه اسارت ریخت و انسان از اوسیان بر بندگی خود خجل شد چه دنیای هی حات بر انسان و انسانیت نیاز بر تفهیم نبود و ما مجرم که فرمان ولی ام به زیر پای دادن حال سخن هرچه باشد امر ندارد تو گوت و فیر گویند و پدر سینه چا کما زندان زندان بران بانوان نگریسن و فکر بر آنان و چشم گریان هم خیانت که انسان برای رهایی موسک و پیش پای خیش که نقد علم کند که بگرید خیانت چه والاتر از این نه بر خاک و انسان و میهن که بر خیشتن پدر دست در دست من ره سپار آن خانه و مادری چشم در راه. آغوش گرمی و نگاه به پدر باز پریشانی و پشیمانی آن مرد فردود. به گوشه ازلت نشستن و ما و مپوت نگریستن بر زندگی. صدای فریاد و گسستن رشته های افکار پدر و آن فریاد ها در سیاه جان. و حال مسکوت در برابر سخنان آن مادر و تکرار قصه شش سالگی و شاید همین و همان است که آن خاطر شش ساله را جاودان کرد کشتند و به خون کشیدند و کام بر نیاوردیم ندیگران که یارانت به انتظار چه نشستی که برخیز و این ماتمسرها را به حال خود بازگردان. گذر کرد آن روزگاران و سینه ستبر که فریاد زد و قد علم کرد و از خاک اجنبان و از ایران گفت چو دیروز و امروز دختر من و خود را تباه ساختی برخیز و آینده بساز، ساز به دور از این خاک بگو و فریاد کن به یاد جوانی آن استبداد دیروز روشنگر باش و چه بسیار دیگر سخنان هر های تکراری مادر بود و پدر که مسکوت نزار و پریشان بود پدر کام بر نکشید و مادر تاخت به خود آمدم و در میان جپه آنان سخن راندم ایران سرایم است این خاک ازان من است به اجنبان نس پارمش و میدان برایشان ترک نکنم این سخن به سردارم آن روز مسکوت ماندم گذر کرده بود زمانی و ایران بیش از 20 سال فریاد برآورد. ما نیزان میشنیدیم و آن دلاوری ها را نظاره می کردیم. هفتاد و هشت بود و تابستان. من شانزده سال دور از این هیاهو نگاه پدر پر بود از حسرت و پریشانی. حسرت از آن گذر عمر که دیگر فرطوت و توان رزم نیست و پریشان که بیشتر پشیمان از آن سرنوشتی که هدیه بر ما و آنان بود نخستین احساس مشترک میان من و پدر همین جا رقم خورد آن مرد پیر و خورد سالی و دلاور احمد آباد، من و جوانی اسارت پدر و مادر و فرزانگان ایران سرا حال دگر من آن دختر دور نبودم سر پر از فریاد بود انقلاب من به وقوع پیوسته و دیگر من آن دیگری نیستم فریادم پرتوان هم چه باشد جز تقدس و ترین گوهر گیتی توگو آزادی چه فرجام تخت در این رویا؟ از دور و دیر و حال آن فریاد و پاسخش شکنجه آن تقیان و پاسخش مرگ آن رهایی و پاسخش اسارت. مادر نزدیک بود و در قلب و از من و به خیشتن هم نزدیکتر و در خیش آریو آگاه بود از انقلاب در قلب دختر و بیش از این پیش جدال با پدر که دیگر نتباهی که مرگ دامان دختر را خواهد جست. پدر نیز به من نزدیک بود هاشنا از حال و احوال با توان خیش دیدن آن فرجام برای آزادگان که نتازه که تکرار همان نقل تکرار ماست این مرد و زن را پر ترس کرد و بر فرجام من نگران حال تا حدی یک صدا ترک دیار سر میدادند و من پریشان بر این جدال گذر می کردم و هر روز بیش از پیش ندای رفتن بر می شنیدم تا این بار که به راستی بر سخن آمدم و از پاشیدم همان نقل اجنبان و اشغال ایران زمین که به آن تندی ولی کن دل به صدای همان تندی گفتیم و شنیدند جنگیدیم و جنگیدند و ما فاتح که پدر و مادر نیز دل به آن بودند حال آرمان من به رهایی گنگ بود و به زمین می‌پرورید با گذر زمان معنا جست و رهایی گنگ طی سالیان به زبان آمد و چه زیبا نقمه ای داد راه توسل برایم به آن آرمان مقدس دانش سرا بود راه آن همرزمان که ندانستم چه گویند و چه پندارند ولیکن ذکردارشان همرزم و همسنگر شدیم من آن کس که درس خواندم نه برای رسیدن به آرمان که برای گذراندن و گاه برای دانستن حال به آرمان درس خواندم پیش گرفتم پر از شور و هیجان دبیرستان گذر کرد تا رسیدن به اسباب آن هدف والا شاید این گفتار به اغراق درآمد و ما هماسه سرودیم ولی کم به دل چنین اندیشم درس خاندن دیگر برای معنای پیش نبود و حال دگر تو گو ساده بر آن عبر سعادت سوارم فرجام آن نیز همان بود که ما ترک دیار کنیم و رهز تهران شویم و در آن تک شهر سخنگوی سخنگویان شویم پدر و مادر گاه پر بودند از آن ساز ناخوش و ناکوک، اختلاف که رفتن خطاست ولی چنین توان رزم داشت و پیروز این جنگ همانا دختر مازند تحمین رزمارا بود. چه ناسپاس بودم که نگفتم از آن خاک پاک که زیباتر از آن نبود و ندیدم جهان را چنین همانند مازند پاک. چه روحی نوازش داد آن بارانهای بی امان مازند؟ آن درختان سرکش که ما را چنین آراست یاغی شدیم از آن رود و تقیان سرکش از آن سنگ ها که سخن گفت و نعره برآورد، ما را به خود از آن ها که فرشش درخت بود و آسمانش سیاه از آن جان که در دل مازند جان گرفت. کتابی که ناخوانده و دل به آزادگی به مازند پیرتن به درسی که دلدادگی به ترک پدر مادران سوی خاک که هر دو پدر باشد و مادران قلب پاک چه نقل تکراری است شرح تهران آن ازدهام و دود و شهری بر تقیان و ما که عمر را در آن سرای زیستن زیستی حال نه زندگی چه گذران می‌کنیم و به یاد مازند شکوه ها سر می دهیم. چه بسیار در آن روزگاران که ما بر این شهر گام نهادیم و پدر شرح روز داد و سخنها راند. پدر بود و احساسی مبهم بر این خاک روزگاری در خیابانهایش تغیان کرد و فریادها سرکشید آن روز که خاک تغیان کرد پدر مسکوت و خموش ماند و این خاطر ناخوش بود. و فراترز آن روزگار درد و رنج که مادر و پدر یک صدا به شرح آن می نشستند و بارها و برها برایم از آن روزگاران میگفتند. من طف بودم و قوت و حال آنکه مرض جریبانم را می فشرد. والدان پر درد و استراب بر چارهای میاندیشیدند. جانشان گروه بر جان من بود. بیش از دو ماه برای رهایی من از درد و رنج در مازند چاره اندیشیدند و افاقه نکرد آنگاه که روزگار زمزمهی ناخوشی برایشان سر می داد به پا خواستند و طلب رهایی از آن شهر آشوب کردند و شهر دست نوازشش بر سرشان کشید و ما که دوباره زاده شدیم، مدد آن طبیب و زندگی دوباره من پدر را پرشغر بر این شهر داشت و آن احساس مبهم گاه اشتیاق بود و گاه پشیمانی حال من در این خیابان ها راه میرفتم. در میدان آزادی نظارگر هر چیز بودم جز همان واجه غریب آزادی اندیشیدن بر همان نام شهریار پیشتر بر ما خوش بود که آزادی نیست و میدان نامی به آریت از آزادی دارد و صد افسوس از این نام به یغما رفته در دوران نگاهی بر این انسانها و یادگاران دوران پیشتر که مردم فریاد میزدند و میدان نزارگر آنان بود از آن فریادها چه نصیبشان میدانی که خجل زنامش است روزگاری گذر کرده بود و از آن تقیان دانشویان که یک تن فریادی از ملت سر دادند هیچ باقی نماند و حال آنکه ملت کیست همانها که آسی بر این اختنادخ مسکوت روزمرگی می کنند و آن امت که از جای پای استبداد تبرک می جوید این ملت و آن امت حق زیستن دارند از برکت همین میدان و سرمستی از همین نام و همان کس که بر عریقه قدرت تکه و متوش آن فرمان و عربده میکشد. از آن روزگار دورتر پدر و مادر کمتر سخن می گفتند. که هرگاه سخنی به میان میآمد به جنجال میان آن دو خط می شود. مادر پدر را خائن خطاب میکرد و پدر مادر را شاه پرست. نگاه من بر این مردمان که در میان این میدان و این نام گام برمیدارند و اسیر فرمان بردگی سر میکشند و یاد بر جنگ آن یادگاران افتادم. انگاه که مادر سخن می گفت و فریاد میزد. آزادی شما این بود. حق زیستن از مردم ستاندن و دفع کردن آزادی های فردی و اجتماعی و مدنی و چه سرانجام مصحکی بر شما و آزادیتان امروز رها هستید و آن کس که پی آزادی سیاسی بود فریاد میکشید، فراری و گوشگی رو زندانی است مادر سخن میگوید گوید که شما آزادی زیستن را کشتید و امروز انسانی که حق پوشش خیشتن را ندارد و فرمان بردار است خوشا بر ما و این آزادی خواهان من در فریاد میزند که این اصارت شاهکار همان قلدرخان است آن روز که چادر از سر میکشید کشید کلاه بر سر میگذاشت، بذر این اصارت ها را می کاشت و ما سالیان است اندرخم یک کوچه این آزادی من تعریف این قلدر آن روح و این نشانه است نگاه هم خیره بران است که به اکراه حجاب بر سر دارد و آن کس که به اکراه حجاب از سر بر می کشد و ما بر جبر زمانه سرخم کرده ایم و فرمان بریم ولیکن من نه این و نه آنم که نامم تهمینه است و سرای ایران چه کس توان فرونشاندن من دارد جنگ میان آن مرد و زن هماره در خاطرم نقش بست و گاه قمین می شدم از این روزگاری که بر ما تحمیل شد و بی اختیار و به جبر در آن مردگی میکنیم ولی کنین احساس پوشالی چه کوتاه بر من می شد که من خود سرنوشت رقم می‌زنم و در سوگ گذشتگان ننشیده و نمی نشینم و زندگی دوباره معنا کنم خود نیز نمیدانم چه این احساسات بر من غلبه کرد و این روحیه بر من پدیدار گشت ولی کن امروز به به آن را فریاد میزنم که سرنوشت را به زانو در میآورم و اختیار را بر جبر پیروز می گردانم. هر نسل در سوی گذشتگان پرپر می شد و تقیان به گلو میخورد حال آنکه من از نسل خیش برخوااصه و برگذشتگان چون تاریخ مینگرم کتاب تهمینه اثر نیما شه بخش پنجم دیدن آن دانش سرا که به سودای همین توقیان بران روان شدم شگر فود و احساس سرزندگی به من داد چه بسیار انسان همسن خیش که توان هم شدن در آنان فریاد می زد و گام نخوست همگام شدن با آنان بود خود نیز نمیدانم در آن روزگار بر این سراحت لهجه پافشار بودم یا خیر اما امروز دوست دارم که در آن روزگار اینگونه بوده باشم پس اینگونه روایت میکنم تا اینگونه باشند ما را از دانش سیاست هیچ نبود و هرچه بر بودیم روح و روان خیشتم بود حال به سرایی گام نهادم که موجبات آشنایی من با این نگرشها را فراهم ساخت نخستین آشنایی در آن روزگار شکل گرفت پدر چه اصرار بی امانی داشت تا در خانه اقوام سکناگزینم و به خوابگاه دانشسرا سرا روی نیاورم ولیکن من نتا به تحمل آن اقوام نمادین را داشتم و نه به دوری از آن صحنه و روزگار همسالان خیش از این رو پیشنهادات را به کرات نفع کردم و در همان خوابگاه اتاقی گزیدم. دختری بود سرکش و جسور که حال هم پیاله ما شده بود. در اتاقی همسنگر و همسخن یکدیگر شده بودیم. سخن از اعتقاداتش می کرد و ما را با این نگرش سیاسی آشنا تا پیش از آن چندی از پدر در این باب سخنها شنیدم سخن از حزب توده و خیانت، خیانت به مصدق، خیانت به شاه، خیانت به ملت و امت، اما پیرامون اعتقادات و باورهایشان هیچ نشنیده بودم. این پس زمینه ذهنی ما را بر تصمیم میوان نداشت و با شیرین هم سخن کرد شیرین نه در حزب عضویت که حزب در ایران ایرانمان معنا نداشت از آن آزادی سیاسی چه فرجام یک دستی بر ایران کاشت شیرین علاقمند بر این افکار و باورها بود و در خلوت خیش هماره آن را میستود و مطالعه می‌کرد گاه پیرامونش با من سخنها می گفت و ما هم گوش می دادیم. با او به مناظره می نشستیم. گاه سخنهایش بر ما خوش می آمد و گاه بیمعنا و پوچالی رنگ می گرفت و این آتش مباحثمان را جرمتر و تر می کرد و این آشنای ما با افکار چپ بود. علاقمند بر آن از او طالب کتاب و مقالات بودیم. او نیز از ما دریغ نمی کرد. آتش این دانستن را آنان شوله ور می کردند که از ما و دیگران دریغ کرده بودند. در این به این چه بسیار دیگران هم بودند که ما با آنان هم پیاله شدیم و سخن راندیم و ما که در ابتدای راه دانستن بودیم که نطقه هایی که نکردیم. این سخنان بحث ها هماره در پسو بود و غیر علنی و گام های آشنایی ما با نگرش های سیاسی را دربر داشت دوستان بسیار جستیم با آنان در محافل بسیار شرکت کردیم. گاه دوستانی که هیچ اندیشه سیاسی نداشتند و گاه آنان که پر از شور سیاست بودند. با هر کدام از این گروهها پیرامون مباحث مختلف بحث می و تبادل نظر آراو و اطلاعاتمان را با هم در میان میگذاشتیم. این سخنراندن و شنیدن بیهزینه نبود و گاه ما را با، حراست رو در رومی کرد که به دلیل سطحی بودن و غیر علنی بودن جز ستاره و محرومیت کوتاه چیز دیگری در بر نداشت در این شرایط مرز که کشتار همدگر نمایشه است برای بدپیران و اجنب این تنبیهات به هیچ تفسیر میشد. شد خاطره آن روز نوجوانی و اسارت چه بسیار که در دانشگاه نیست تکرار شد که حق زیستن هم انتصابیست است و ما فرمانبردار از دستورات چه صوبها که لشکری از مرد و زن یا بهتر بگویم دختر و پسر اسیر شده در گوشه‌ای و فرماندار بر آنان فریاد و تشر سر می داد و این اسیران که کاری جز فرمانبری به خود ندیده و امان از این درد بیدرمان عادت سخنگفتن او که فریاد است و اسیرانی که از فریاد او بر خود مشکوک که آری شاید ما نیز مرتکب خبت و خطایی شده‌ایم آن دم شادی و هل‌هله مستبد که اسارت هم عادت شد کیست که قد علم کند و این قفس ما را بشکند و فریاد من که چون آن ماهی دریاس که در آب و خاک فریاد زد و کس صدایش نشنید نخوست روزگاران ما بودیم و نافرمانی از این اسارت که دریق از آن اتحاد که آب در هاون کوفتن شد این رسم ها و پس از گذر در زمانی ما نیز چهار روز روزمرگی شدیم و عادت به ما مستوری شد ولیکن دل همان بود و چه ارزشی که دل سخنگویت فرمان دهد آنجا که جنگ آغاز و اسارت در گوشه خزیده است فرای شیرین و سخنانش که ما را آشنا بر افکار سیاسی کرد دوستان بسیار داشتیم و افکار بسیار که تشنه بر دانستن بر کلامشان گوش فرادادیم و بر کتابش چشم دوختیم. از هر دید و فرقه و فکر اندیشه هرچه در میان بود در آن بگوله که هر کس به نهان پرفریاد و در آشکار مسکوت و منفعل است، روزی باز خاطره آن دخت ایران لیلا بر ما نظر انداخت روزی که صدای بسیار کرد و همگان سخن از آن راندند و حال آنچه ما کودک بودیم لیلا از پیشمان رفت و کس سخن نگفت و امروز ما تفسیر از دیروز میکنیم پسری که بسیار درس خاان و منضبط بود اون اندیشه سیاسی خویش را مطرح می و نه سخنی فراتر از درس میزد و با چهرهی که گاه ما را به شک می انداخت که جبس ها است به ناگه از دانش اخراج شد و سخنش نقل مجالس گشت کشستشان خبردار از این که او یادگاری از لیلاست و دوباره همان سخن از بهایی و بهاییت و این دوم بار در گیری ما با این واژه که پسر با استدلال بر قانون اخراج و دیگر حق تحصیل در این سرزمین نخواهد داشت ما و خجستگی و تکه بر قانون که قانونمان نه از برای ادالت که عدالت و یا حماقت و یا فضاحت و هزاری دیگر از آن بیشمار واژگان با تنی در این میان آشنا شدیم که چه بسیار شبیه بر پدر بودند و سخنانشان نزدیک بر آن مرد فرتوت لیگگاه از آن دور و تنی دگر شکل داشت تو تا سر میگردانی افکار میبینی و سخنها و برخی مسکوت در آتش که اواخاه این روزگار و این استعمار و اختباس از دینی و از آزادی بودند. ما در میان آنان سرگردان و از هر تن سخنها شنیدیم و تعمل کردیم. چه عجیب که بر آن درس و آن روزگار فکر کردم و نه شاید شما. می و مینوشتیم چون دیرتر روزگاران لاکن در این منجلاب که هیچ بر جای خیش تکه نکرده تو از من نخواه که بر جای خیش تکیه زنم و از آن روزگار آن گونه که تو در سر پرورانی، سخن برانم که نقل ما نقل واژگونی و واژگون کردن هاست روزها گذر میکرد و ما از نهان به آشکار میآمدیم حال بیش از دو سال از حضور ما در این دانش سرامی گذشت و کم و بیش با باورهای دیگران آشنا شده بودیم. مراسم معارفه به بحث بدل شده بود و سخن پیرامون مباحث اجتماعی که همواره در پسو شکل میگر در آشکارا بروز میداد. هرکس سخن ها میگفت، جانب احتیاط را نیز رعایت می کرد و در سخن گفتن بیپوا نبود. سخن از مسائل اجتماعی روز بود. و سخنهای سیاسی کماكان در پسو گفت و شنود میشد اما این سخنان هم بر آن مستان قدرت خوش نبود و شرایط دانشسرا دگربار واژگون شد هرچند که از روزگاران نخست چون زندانی بر ما كردارها میرفت ولی کم پس از این رویدادهای کوچک و از چشم آنان بزرگ و جانکا این زندانیان و اسیران شرایط بحرانتری را برخود نازل دیدند و باید که فرمانبری به اثبات میرساندند به دانش سرای دانشسرایمان زندان بود و ما زندانیان و دیگران نهبا اغراق و منفیگری که هرکس خوشبین و بدمین بر آن صحه میگذاشت همه به شدت مورد بازخاص قرار میگیریم و کنترل میشویم سخن سخنگفتن و هماهنگ شدن با یکدیگر را نداشتیم جمع هایمان متفرق می شود. من و شیرین هم در همان چارچوب خیش سخن میگفتیم و در پی راه حلی بر این فاجه از خفقان بودیم چه همگان را مسکوت و منفعلتر از دیرباز کرده بود نیز چون من بر اعتراض پافشار بود و راه حل را در میان توقیان می جست. ولی چنان رغب و وحشت که بر محیط دانشسرا حاکم بود اسیران را بیش از پیش ساکن می‌گذاشت و ترس جزی از زندگی ما شده بود. خبرهای ناگوار بسیار پخش میشد که گاه شایعه و گاه واقعیت بود. حمله ماموران اطلاعات سربازان گمنام امام زمان به خوابگاه ها به بردگی کشیدن برخی از اسیران به معنای تعویز زندان زندانمان از دانشسرا به سوی اوین از اوین به دانشسرا و در نهایت ایران بزرگمان و چه بسیار از این اسیران که در این رفت و آمدها بودند و هر کدام با انکار خیش باز می گشت در این سلول باز می گشت در این سلول گذشته خود و با اثبات خیش به سوی زندان عظیم دیگر که نامش اوین بود و یا شاید ایران راه سپر میشد. فشارها بیشتر و بیشتر میشد. من و شیرین تا آن روز دم به تلا نداده بودیم و آزاد در اسارت خیش بودیم. موجی از اعتراض در حال شروع بود و هرکس کس که فریادی داشت، خیزو میبران آتش میشد. ما نیز چون آن دیگران بر این آتش بودیم. با احتیاط نزد دیگران می رفتیم و سخن از اعتراض می کردیم. گاه دست به نگاشتن شبنامه و گاه اعلامیه میزدیم. جرقه این تقیان به ناگه خورد آتش زیر خاک را با باروتی نمناک آتش گرفت نانشور و حرارتی که من امروز به نگاشتن آن مشغولم چه آرام و صداتر از آن ولی کن آتش گرفت و خبرش میان همین زندان و یا سرا پخش و آن منفعلان خموش را نیز به کار واداشت اعتراضی شکل گرفت جمعی متحسن، جمعی شعارگو، طالب برگشت بر بردگی پیشین بودند که ما را به آزادی کار نیست و جستن همان اسارت بر ما که آزادی رویاه شد و پر من ناگه در این بیداد روزگار به یاد آن خاطره پدر افتادم که برایم اینگونه می گفت روزی برای انجام کار به بیرون رفتم اتومبیل نیز همراه هم بود و در این کارزار بر ما مدد می رساند کارمان در آن ازدهام بود و جا برای یار مددجویمان نادر و کمیاب از این روی آن را امانت به خیابان سپردم و خود راه به ازدهام دادم کارمان زمان برد و ساعتها یک لنگ و پا در جست و خیز بودیم تا سرانجام به سوی یارمان بازگشتیم بازگشتیم تا امانت خیش را از خیابان به ناگه بنده دل پاره شد و از خود بیخود شدیم این چه روزگار بی انصافی است که ما را از یار خیش جدا کرده و درمانده میگذارد؟ ما در آن جای و آن عهد با خاک نیست هیچ از آن یار غار دنیا بر سرمان واژگون و هیچ امید بردل نیست که ناگه خود دیدیم و این خیال آشفته که غفلت از ما و حافظه و ناگه به یاد آمد. سرایان عهد اینجا نیست و چند گامی آن سوتر است. شتابان به آن سو رفتیم. حال دنیایی برای من هویده بود. یار جستیم. آفل از آن که هیچ بیش از داشته خیش نجستیم و در خیالی باطل پرشادی هلهله پیروزی سر می دهیم. و ما در این روز فریاد روزگاران پیش سر می دهیم. نفراترزان، باری ما فریاد زدیم و اعتراض سر دادیم. فرجام به ما چنین روزگار رخ نشان داد. شیرین این یار چپ زندان یا دانشسرای دیگر اوین، تهران، بهش، جهنم و یا دریا بود. رفت و ما مشمول بر ستاره جاه و مقام جستیم آن خفقان سکوت، یس هیچ بر ما غلیان نکرد و شایعه بود که فریاد میکرد. خبر از دستگیری و شکنجهگاه اعدام که مشتی اسیر فریاد بر زندانبانان کشیدند و طالب روزگار اسارت کمی پیشتر خیش گشتند خود را به خاطر آورم که در میان آن درگیری تومه زندانبانان شدم و به اسارت دگربار درآمدم. در آنجا سخن بود از اشتباه و خبط و خطا که ما جزی از آن و آن جزئی از چه که برای ادامه مبارزه زیر بار سخنها رفتیم که هماره از کودکی رفته ایم حق زیستن از خیش دادیم تا رهایی پیشه کنیم من با تعهدی رها از اسارت و شیرین و آن سر پر از قصه ها ناپیدا و مفقود سخن از فرارش می آمد و گاه اعدامش گاه زندان و گاه چه تکرار زندگیمان و از شنیدن و گفتن این سخنان نه آسی که فرمان برداریم با مدد از زور و تزویر سکوت بر دانش سرا شد همگان خفقان پیشه کردند زور که همان نقل تکرار است و قبهش از دستمان دور و دورتر رفته است و ما تشنه به عادت شدیم و تزویر همان نقل حکایت پدر آن یار غار ما را رهایی دادند بر آن رهایی مینامند و حال چه توفیر که ما چه میاندیشین اسیر را چه به اندیشیدن و ناسپاسی که سپاسگزار باشی از آن رهایی که بر تو تحفه شده است فرجام این اعتراض ها و سخن بازگشت شرایط پیش بود دیگران بودند و پافشاری و قشر عریض و طویلی از اسیران که حال ملبس به گوشواره و یا همگان آنان را میشناسند و به دنبال خبط و خطایی از آنان برای سپردنشان به فرجام شیرین و شیرین دست و پا میزنند. کتاب تمینه اثر نیماش ح بخش ششم سال آخر دانشسرا بود و من غرق در خواندن و دانش. آن شوری که به یعصم مبدل شده بود از آن روزگار جز آن نشان چیزی بر ما به یادگار نمانده بود و سکون و خموشی که فریاد میزد من بودم و دریای بیکرانی از فکر که چه باعث شکست و سکون ماست همان درد آشنای تفرقه و مایی که سالیان به دنبال اتحاد و اتحاد گریزانز ما پیش از این اتحاد سردرگمی ما بود که فریاد می کرد ما را از هر شی باز می داشت. سودایی که هیچ بر ما مشخص نبود و خیشتن از آن باور باورمند نبودیم. درد آشنا بود و درمان ناپیدا. چه چیز این خیل انسان را به کنش وامی دارد؟ باوری که حال میان ما شک و شبهه است و روزگاران دراز به دنبال آن بگردیم و روز جستن آن روز پیروزی است. چه توقع از ما که بخشی از آن جامعه مسکوتیم و جایی که هیچتن فریاد آن دلاوران دیروز که صدایشان محکم و رساتر از ما بود نشنیدند و ما زدجه ای زدیم که خیش از شنیدن صدایش محروم ماندیم این یه حال آن روزگاران من بود که هرگاه وان اندیشیدم از خود بیخود شدم و ناامیدی همه جانم را فشرد. ولی کن امروز اندیشیدم بران روزگاران خاطرات و تجربه های پیش درهاست. روز که سری آشنا با درس و سیاست داشت به کمال دانستن نزدیک بود عزم خیش بران استوار که این معموریت به پایان برسد و روزگاران آینده دیگر معموریت و حال آزارها به ما کم بود که دیگر همه یوق خیش برگردن نهادند چه پیش از این خواستار از آن اسیر که خود مجیز ارباب گوید ما مجیز نگفتیم و مسکوت بودیم لاکن این سکوت هم تایید آن مجیز دیگران بود چه حاکم بر دانش بر عریقه قدرت میتاختند سرانجام ما ترک دانه سرا گفتیم و مدرک خواندن خیش به زحمت گرفتیم که آنان هم زحمت به ما دادند و از آن کردند طول این زحمت ها را میان همان تکه کاغذ تمام این سال ها تلاش به تهران گام نهادن و از این سوی آن سوی بهر جستن حال فارق از دیروز تازه کردن دیار با شهر نفرین شده هم تهران چه روزگار در این خاک گام برداشتم و ندیدم که چشمان جای نگریس نگریست و گام بر جای دیگر برداشت این شهر همان شهر است ما گذر زمان کرده اینجاییم میبینیم و نمیدانیم میدانیم و نمیبینیم چه تاریخ از ما گذر کرد و ما را در آن گذر کردیم او به سوی من آمد و ما آن باز گشتیم تحمینه با آن صدای مپم که فریاد زد آه، ای آزادگان از دست استبداد داد خانمان شش هزاران ساله را برباد داد یک نفر از مادرش هنگام زاد آزاد زاد بهرچه خود را به دست جور استبداد داد این چه صدا و فریاد تو گوست سال پیش ما، هزار سال پیش کجان غیور آزاده فریاد زد نه امروز که صد سال پیش و ما امروز نفس خورده مسکوتیم آن خیابان آن صدای مپم و این روز خیل نسان در خواب فریاد صد سال پیش دفع کردیم و یوق به گردن نهادیم و نازیدیم که بندش تلاست چه به فریاد که صاحب دارد و خلیف زمام دار. شاه و ارباب و خداوندگار چه زیبا بخشید به ما آن یوق زرین و به خود بال که بخشنددار خلیفه ماست این همان بهارستان و خلق را همان نگو خلق که ما را راز خود پریشان کردی و خوش آمد در این بیغوله کجا آسان رهاگویان و بست نشینان که طلبدار قانون بودند و اساس که تو حق دادی و حال حق به تو داد و ما به خود ببین که صد سال پیش تبریز و آن فریاد رسا که بغت شد امروز در گلو و فرو خوردند سر به تاعت ساییدند و یوغ زر به گردن نهادند و سرمستانه هل کردند و رخصیدند کجا آن فریاد بهارستان که چورت شد خواب و آب ملت را به امت برد فریاد کو و کجا آن فریاد مشروطه هیهاد که مشروع سرداد؟ بین آن توپ که بهارستان به خود دید و ما باروت آن شدیم چه ها که بر ما نگذشت نگاه بر آن بنا و یادگاری که چه از آن باقی و توگو چرت و خواب و آب و ملت و امت بخوان همان شعر و یادگاران کامه که هیچ ز آن باقی نبود و نیست جز این شاهانه این کیس برابر آن تاریخ که خواند و حیران نشست چه گذشت بر این خاک و بریم چه بسیار باور و تفسیر ز ما از آن روزگار نه اون که پیشتر و پسر لیکن چه سود و از ما اثر که نه آنان ز ما و نه ما ز آنان و حال اینکه که است که خیشتن ملت است و تاریخ باور است و آینده ساز چه فکر بسیار بر سر از آن روزگار که نه ما بر آن خشت افسوده و نه از آن خشت برکندی لیک تو دان خیش بنا فروری و بار دیگر بنا کنی. بخوا نام خیشتن که تو تاریخ و ملتی این منم که حال در این قهقر گام میزنم و تهران به زیر پای خیش دارم جای جای آن تاریخ برنگارم میگذرد و خیش در آن روزگار تجسم کردم اما چه سود از این وهم و خیال که نمک بر زخم پاشیدند و ما متحوش آن گذافه را گفتیم گذر از این اندیشه و حال سرپرز هزاران خیال نه از دیروز که امروز و تو گوساز فردا و فردایگان را من و آن مدرک حال فکر آینده ایم و گذر زندگی و یا همان صحیح تر از پیش مردگی فکر به مازند و آن مرد و زن پیر که تعبیر تاریخ و دیروز من بودند و هستند چه دل پر مهر دیدار یار آن مرد و زن فرتوت و آن مازند زیبا و تجدید آن روزگاران دور که دیدیم و باز دل کندیم چه خیش آینده سازی و از آن روزگار دیر گذر کردیم چه عجیب که سالیان خواندیم و شنیدیم بران روان شدیم تا بدانیم و بر دیگران بیاموزیم لیکن در این گفتار از گذشته ما را خاطره خواندنی نیست که آنقدر به اطراف فکر بود و یاد که اصالت برفت بر باد حال که فارغز تحصیل شده ایم و فصل برداشتمان رسید نبود آن کس که زما بهره برد و خیشتن بهره دادیم نام بهره که خوش بود و خوش آمد که آن بهره زما ساخت آن برده من بودم آن مدد از یار که خیشتن بهره رسانم بر دیگران همان بهره که خوش باشد دیگران خوش آن چه سالها که در آن زندان خواندیم از روان و خیال که فردایش به دگر اسیران بیاموزیم درس زندان را اتاق که نام آن متب بود و ما طبیب خطاب و خیلان اسیران که سرازیر درس بردگی خیشتن بیاموزند نه انحصار آن درس آن دانش سرا که در تار و پود نسان و اجتماع نقل آن روزگاران چه تلخ و دراست چه زندان بزرگ که نه چون دیروز آن دانش سرا که این بار سرا سر این خاک است راه رفتن در این خاک چه ترسیم بر ما و آن چهره بیمار از اجتماع خیل نسانها ها که یوغ برگردن و جملگی ره روح به سوی بوسه بر پای جور استبداد بودند ما در این خاک نه تنها که تو گو دنیا چنین بود و باشد و همگان محکوم بر این بردگی و اصارت ها شده صبح برخواستیم و راه به سوی آن دخمه سخن گفتن و شنیدن از درد آن بنده بیرون از آن نظاره بر چهره مردم چه دیدیم و شنیدیم تو خوشدار که زنده بودیم و بس و نه فراتر که گاه پستر از آن آن که از به تو آویزد و مدد از تو دارد تو چونان قادر مطلق نه نگاه کن و نه بشنو که راه به پیشگیر و زنده مان که ما را همین خوش باشد از زندگی تو گو ما زنده ایم و نگاه کن بران کودک که جان کند و کار کرد و قادر به تخت مفت خورد و آشامید چشم گردی و آن جنگ و آن فریاد دوتن دشنام خون و جرح و کنکاش سبب که بیمار گشته انسان از این سنگینی آن زنجیر که خوش رنگ بود و خوش و جنسش تو گفتی که زر و آنان پای کو به این شادمانی چه مسیر طولانی و هر روز کشف آن درد تازه چه شنیدیم و گاه دیدیم و کاشف بران درد تو گو زندگی کردیم آن زن نشیده در برابر به ما و سخن زرنجهای جان و ما شنیدیم و گفتیم برخیشتن و دیگران نغمه بر فریب سر دادند نان که سخن ما فریب بود و آن زن فریب خورد که اساس فریب داد و ما فریب خوردیم آن کودک و زجه هایش که طالب ای آب و زرهی نان آن تن و ثروت نگاه به تحقیر نبران کودک که برخیش و خیشتن که بنگر کس تو را حقیر دید و تو کس را حقیر پنداشتی چه فکر بر ما جزان درد که خیشتن داشتیم و دیگران داشتند به دنیا آمد تن که برده باشد بر جای برده گیرد آن روز پیش به آشکار و این روز پسرین پس به نهان و آن روز دانسته یو تندادی و حال ندانسته تندادی نگاه من آن روز بر خیل نسان که فریاد که و هلهله کنان جشن مرگ خیشتن سر دادند چه درد بر ما که صدای مرگ دگر بر سر پروراند و آن کس مرگ دگر بر ما نشاند نگاه بر انبوه جوانان که در پی تهمانده های رهایی هلهله سرداد و خیال از آن تقدس شست و خیشتن را به اسارت خوش داشت و یوق به گردن شلتر آمد به تهمانده خیش آن سفت گرد و بر این کردار خیشتن هلهله ها سرداد چه برنسان میگذرد که نماد خروش اشتگو سیل جوانی به بردگی خیش مفتخر است و هر روز به بازی تازه سرخم آورده و بازی خورده. من و دیدن این فکرها بران داشت تا چاره جویم و خیش به حد توان فریاد برآورم. تو گوزات این گونه با من از زیروز اینم بران مغرور لاکن تو بدان به ذات چون جبر چیرایم. که نه در وهم که اندک و گاه خیل به حقیقت راه رفتن در خیابان و زمزمه آن شور دیروز و نگاره بران پیکر از سیل جوان و خواب و مس و متحوش در گوشهی و فریاد نه از برای تو تقد و, و که از سنگینی بندهای بردگی و بندگی آن خیال و آن فریاد پدر که ما منگ و به خیشتن فکر کردیم و حال بار دیگر به نظاره نشسته ای. آن زن و دختر و مرد و پسر و آنکه هار گشت از سکوت ما و حال فریادمان نه از برای تو رهایی که بار سنگین زنجیر و یوغ بندگی ما را بدین فریاد رانده است و نمیخواهند زنجیر بدرند و آزادگی طلب کنند که خاصاری بندی زیبا و خوشرنگ تر شده اند و فریاد سر میدهند آن هم در خفا و نهان به چه نظار نشسته ای مرگ خیشتن میبینی؟ آنجای که زندگی خیش امر دگر شد و تو تابع آن امر فراترز خود نگاه همان آن پسره که جوانان موی بلند به دست همان هار شده مسبب ز مسبب و فریاد و خیل نسان منفعل به نظاره نشسته است حال که برخیست فریاد سر سربه که آن زن که به دست دشخیمه است و مسبب به تفرج بیمارگان تو چه بر آنان نام نهادی؟ سرخوش از باده کدامین شراب چنین دم زدی که خیل نسان به تماشای این دیوانگی سینه تب کرد و خوش رو تناب برگردن چرخش پای و روزگار سر به دست دشخیم و جبر تفریح چنین جاندار بدوی و بربر بگفتین بربر و بدوی که حال تجدد از آنان بین و به لعنت فرست که چه فکر بر این قوم نسان نهادینه گشت و پای بست از بنا ویران کرد شبانگاه و روزمان فکر بر این کردار و پندار نسان چارجوی که باشد همان معود که برخیز و گردم بزن زدهتن نهتن را و هممام خون به پا کن و خون به زانوان برسان تو موعود نطفه ها بکش قبل ذات که جهان تصویر تو بر سراغاز بردگی و فرجام بردگی دگربار تو گو باز هم کشتار و مرگ و تبعیض و باز هم بندگی سخن گفتم و سخنها شنیدم من و برخورد هرگاه با این روزگار بران شدم تا بیش از آنکه برانم باشم و فریاد سرکشم به سودای رهایی و فریاد به دانش سرا گام برداشته و خفه شدیم و دانستیم از مه و خورشید و فلک لیک کار بر ما افسود و ز ما چه خلق کرد همانچه نام دارد آری خلق و گفتیم بنده و گفتیم برده به زندان در آمدیم و درس زندان بودن آموختیم و آن شور و کنش به روزمرگی مبدل از آن آزاد برده ساخت دیدن و تاراج درد دیگران دگربار بار نشانده ما را به کلاس آموختن این درس بود که روزگار جستن به ما آموخت و خیشتن فراتر از روزگار و سیل و خیل فریاد خیشتن ساز کردیم برام بودیم که دیروز برام بودیم به فکر چه بود؟ مدد بران سیل بیچارگان که اسباب تفریح سیل دیگران هند آریان کس که بر ما طلب مدد کرد و خیشتن به ما آویز مدد رساندی چه مدد تو گوز زرنان جرع آب و یا فراتر از آن جستن جرع آب و زرنان بران کودک چه مدد رسید؟ و بران جنگ بی بیفرجام بران سیل جوان درخواب و بران دانش پجوه بردگی ها فکر بران بود که درمان بجوییم بیدارگر باشیم در آن دخمه سیل نسان جای فریاد بود و جای درمان نه درمان سطح درد که ریشه بر ما دوانده و چه سالیان بر آن قوت خوردیم و چه بسیار سالیان به طعم قوت خوردن ما خوش نشسته است چه گویند از آن هزار درد که درمان ندارد و یا به ما آموختند که درمان ندارد هر کس بر این دخم روان بود و از درد خیشتن سخن میگفت و ما که از درد همگان سخن راندیم که گر همین تو به درد خیشتن درمان کردی از آن درد خیش گفت و ما سعت درمان کردیم و به جنگ ریشه هم رفتیم برو از خیشتن خیش گفتیم از آن تقدس به فنا رفته که هر کس تفسیر کرد و بر دیگران خوراند بیان که ذره زمان تعقل به ما دهد از آن حق گفتیم و از آن وظیفه به دست خیش نگاشتیم و به دیگران عرضه دادیم تا بدانند و سپس دانسته تسلیم نشوند و یا یاگر تسلیم شدند ما بدانیم که دانستند و خویشتن چنین درک کردند و خوش آبرانان که بر بردگی خیش شادند. نگاشته من از رهایی برد و درد ریشه دار که گریبان گرفت و جای خوش کرد و نرود جز به ازم آهنین هزاران هزار آزاده. سخن از دانستن بود و بر دیگران آموختن که خیش بران بودند که با چنین کار سبب روشنی یک تن شدن چون هزاران است فراتر از چنین کار شرکت در رزم دیگران بود که گرخیش دیگران دیدیم همان رزم رزم ما بود همان رزم رزم آنان چه بسیار آزادگان که از برای مساوات سینه تحب کردند و ما نیز چه آنان سینس تحب کردیم و فریاد برآوردیم در پی شهادت از دیگران بودند تا سخن اثبات و فریاد به کرسی نشانند و ما شاهد بران و بسیار بر شاهد دیگران نشست بود و هزار تن بنشست و گوش بر سخن و چه بسیار دیگران سخن راندن و ما گفتیم و ما شنیدیم و آنان شنیدند زهر هر بویی از رهایی داشت به ما خوش آمد و در آن خیشتن شریک دیدیم حال آن آزادی و رهایی که ما بر آن باور داشتیم و بر دیگران دیگر چیست تفسیر شد یادان دوستان آن زندان که تعبیر گشته بر دانش سرا خوش بود و به دیدارشان می رفتیم و می گفتیم. برخی از آنان مسکوت و دوچار آن فرمایش فرمان فرما مردگی کردند و ما دیگر از آنان در مردگی فریاد زنده ایم سردادیم آن تفکرات و باورها گاه میان دیگران از آن به خیش هوا میجست می و گاه مورد اعتناع نبود و تنها بر صاحبان خوش آمد لیکن گفتن به ما خوش بود و شنیدن ز زانان نفراتر که همین خوش بگو و بشنو نترس و زنده باش گاه آن دخمه بیمار به سوی من روان و از درد ناله می کرد ما به درمان آمده و حالان تغییر و سخن از حق بود وظیفه و تعالی گوش می داد و نمی و متحوش به مردگی خیش شادان بود و ما خوش آن روزگار که گفتیم و دیگر برای آن چه به حال ما سود که کس بر بردگی خیش بنازد و از رهایی بگریزد گر این خوش بر است ما هم سرخوش از سرخوشی آنان گاه آن نشست به حال خیش ناله سر دادیم که تو بین سیل نسان در نیاز زیستن حمله آرد و به سودای ذره اینان ز خود بی خود شود و یوغ برگردن نهد و سیل روان شود و بران تعقل ز افکار آنان نباشد. لاکن حال فریاد رهایی چنین مسکوت مانده و سیل به سودای جرعه آب روان است. گاه از خروش دیگران به خود آمده و بر خود بالیدیم و گاه از انفعال آنان به خود نگریسیم لیکن بر ما همین خوش که بیداریم و در پی بیداری دیگران بگفتیم از خیش آن یار پیش و پس که با مدد از هم راه بنیان کرده و نشست و سازمان راندیم که بیدار شوند و بشنوند همان تهمین نام که در آغوش مرد و زیست که تاریخ سمر دادند و در گوشهای خزیدند حال تاریخ گذشتگان مطفوم کرده و خیش در پی ساخت تاریخ دوباره است تو میدانی و من که هر چیز دنیای تاوان به خیش و حال فریاد رهایی چه تاوان خود دارد که آنجا شاهراه بحرکشی از دیگران را ببندی سردران فریاد براوری و دیگران از خواب برخیزانی تو دان تاوان چنین جنگی چه تلخ و چه سخته است. لکن این تلخی شیرین به کامان آزاده به سودای آزادی به سر می پربراند. تو بدان این زج برو خوش باشد که از خواب بیدار است و در پی بیداری دیگران که جماعت بسیاری است که مردگی را زندگی می کنند. حتی به قیمت رنج خواهان بیداری همگان است که برخیزید. آن روزگار و فریاد نارس ما در پی طلب آزادی دیگران که تو دانی همان رهایی خیشتن هم هست صدای از ما نبود و آنان بی اطلاع لکن گذر دوران رفتن فراتر از دخمه و شرکت در آن جنگ دیگران که جنگ جنگ ماست صدای فریاد ما و آن مطلعان و همین شروع داستان تاوان رهایی است که چه بسیار شنیدند و دیدند و اگر ندیده نشنیده اید من از آن بازگویم و تو بدان که تاوان رهایی شیرین به قد جستن رهایی است نخوسبار طلب برابری آن زنان بود که در پی شاهد اثبات حرف خیش بودند و فریاد بر این تبعیز سر میدادند و حال من نیز بخشی از این رزم بودم و بر این همت استوار می‌بالیدم در آن دخمه و دگر جای طالب جستن شاهد از بر رسیدن به برابری تلاش میکردیم و این تلاش ناقوس دشیمان به صدا درآورد. حمله بر من نتهمینه که بر زنان بسیار چانیوغ زرین رنگ عوض کرد. حال مرئی و هویدا از آن به گردن سیل نسان انداختند آن نهان و نامرئی و سخن از زر بود و حال ما آن به گردن آشکار داشتیم و سخن از زور بود یاد نوجوانی و فریاد پدر هماره با ماست که حق زیستن ز ما ستاندند و حال تو بهر جستن چه هستی که ریشه زیستن تو در دست آن دیگری و تو از برای رهایی و برابری فریاد برآوردی نخوست دوان زیستن خیش باز پس و سپس فریاد رهایی سرده لاکن این تخمین است که به صودای رهایی همه را با هم تو می خود بین و از این قرور خورده نگیر که حقیر بودی و حقیر دیدند چه ترخ دیدن آن مزدور و دشقیم حال توگو عاشقان بردگی که از عشق چنین ننگ بر دیگران بر این ننگ وا دارند و چه شیرین دیدن آن هم رزم که خواب شب بر آنان سخت کرد و صدای فریاد از آنان خواب رو بود که برخیزید و به خیزید و بشکنید قفل های این زندان را. نخوستان آشکارا یوق اصارت به گرفتن عهد و پیمان بسنده شد آن عهد که از تو خواهد دگر آزاد نباشی و در بند حس رهایی کنی از این بند در آی و در بند بزرگتر بردگی کنی نه از برای رسیدن به بند فراتر که برای بیداری دیگران عهد گردین که شما خواب باشید ما بیدارگر دیگران تو بدان این نقل سر دراز دارد و آزادگان بیابزار به جنگ مقتدران درآمدند و در این بینگاه به اثارت در بند و گاه در راه رهایی فریاد برآوردند ما از آن سیاهچال به بیرون باز راه خیش گرفتیم که تو بدان بیش از پیش فریادمان من و عزم من جزم شد که خود دانه و آنان بدانستند فریاد ما تلنگر بیداری دیگران است و آنان به ترس افتاده و ما به شور آمدیم بار دیگر ما در آن نشست بودیم و بیش از ست تن نشیده در آن نشست سخن سخنها راندند من نیز سخن راندم سخن از برابری بود و رهایی. هرکس از آن روز سخن میگفت گفت که خیش دیده و از دیگران شنیده است هرکس فریادی بود و آن جمع به شور می آمد یکی از درد میگفت آن دیگری از درمان و شادمان از این شور و شکستن این امفعال که به گرده ما چسبید و همگان بیمار کرد در این شور صدای پای بردگان به گوش رسید و حال حجوم این تشنگان بردگی به اسارت کشیدن که خیش اسیر و دیگران اسیر دیدند و حال که این جمع فریاد رهایی سرداد چه تلخ بیامد بر این مشت اسیران که کس دم از رهایی زند و ما نتوان شنیدن چنین سخنان بار دیگر تلخی و شیرینی نظاره بر این آستان ناعدالتی که چه واژگان دفع کردن و ما دگربار به تعبیر آن نشیده ایم. از این رویداد بسیار بر ما گذشت و هر بار نیش و دندان نشان دادند تا مسکوت کردن ما را به نظاره نشینند. سخن ما آن روز آنچنان بر نمیتاف که کارز ما بستانند. راهی زندان که نه شکنجگاه کنند زیرا سخن هم ملایم و ملیم بود و بیشتر از رهایی سخن از ادالت بود و برابری در برابر بردگی و نابرابری. این یوغ به گردن بود تا جای سخن باشد و سخن رانده شود که شاید برکی بشنوند و از آن بیدار شوند از این روانان به دندان نشان دادن بسنده و در پی گرفتن و دریدن تن نبودند و ما چنان بر این جنگ ادامه دادیم و هر روز در جست و خیز بودیم گاه زندان بزرگ و گاه در آن سیاه چال کوچک هر بار احت و پیمان و هر بار راه تازه برای رزمی تازه لیکن کتاب تخمینه اثر نیما بخش هفتم امروز بار دیگر بر روزگار چشم دوختم و در پی هجی کردن تاریخ ایرانم نه آن تاریخ که خواندم و پشت سر نهادم چه کاسی و چه فزونیش آن تاریخ که خیش نگاشتم و بران آن بال و پر دادم آن تاریخ و آن خفقان و ما که جس و خیس کردیم و در پی جستن هیچ از هیچ برآمدی بهار بود و ما 26 ساله آن جوان که هیچ از زندگی نبرد و در پی افسون بر زندگی بود حال دل خوش بر آن افسون نو در این زندگی هوش سپرده به امواج سیل انسان ما تازگی بهاری شاید بر ایران در این زندان بزرگ که نامش ایرانه است و هدیهی از پیشینیان بر این سیل جوانها سخنها بیامد از صلح و اصلاح. آن روز به خاطر است. آن همایش سبز رنگ. سیل جوان نشیده بر تخت و آن مکر لب سخن گشوده تو گو هیجان که آنان ز خود بیخود خود شدند. کلام نخستش هماره در گوش ما زنگ میزد و تفکر برخیشتن مرا وامی دارد. آن انگشت بر بردهان متحوش سخنان و کلام که میتراود گوش و زن که خجل است دوتن دوش به دوش هم که هرتن تاریخ نگاشته و برگی از این نکبت ایران است و سیل جوان که تاریخ به پشت نهاده و در پی نگاشتن تاریخ است یکی همان هی سال سکوت و مکر است و آنتن هی سال مرگ و قتل است لیکم به سیل جوان چه باشد فکر که خیشتن دوبار و دگر بار تاریخ نگارند سخن از جلب بود و تبلیغ و آن مرد لب گشود و سخن گفت نقل از اصالت سخن است که سالیان روح و ذهن ما را می‌خورد. هرکس هر کس که اشت ارشاد نمیخواهد به آقا رأی دهد این پوتک بر سر ما می نوازد و خیل جوان فریاد که رهایی رسید و از شکوهش سرمست فریاد و شعار سرداده و ما که به حال خیش گریه سردادیم نخواهد آن زن برابری که از این برار برتر به تو دادند و نخواهد آن مرد حق زیستند که زندگی به تو دادهاند و ذکر مصیبت که تکرار و تکرار و تکرار از گفتن است زبان قاسر و حال این جوان به چه سرخوش و فریاد سردادند؟ آن بیگنا که در برابر قاضی شهر به زانو کشاندنش و فریاد کشینه آن مس قدرت به هوا که فرجامت همان دار و چوب و نفس ستاندن است و چه در برابر آن بیگنا جز مرگ و فقان روزها گذر در سوگ خیشتن گریه سرداد و به فرجام قاضی شهر چه رحمان ماشد و رحیم از آن مرگ به تو اسارت هدیه داد روز و نماه که تا مردن بمان لیکن این چه محبت که بیگناه به بعض نشیند و هل هل فریاد سرور سر میدهد تو گو دنیا بران دادند نفک و نبرگناه که بیگناه متخوش و مست رحایی توگو بر این اثارت است و او نقمه آزادی سر داده و می ستاید جلاد خیش را چه سخنها راندن از ایران و رهایی و ما خجل و آزادی گریزان تو گو این سخنهای آن روز از و من فریاد که خواستن همین است که این فریاد آن روز بود و نبود لیکن تو دانی و من من آن تهمینه عمری در پی جستن ناچیز رهایی آن روز سخن از همان ناچیز و گاه هیچ لیکن سرمه است از همان و مبلغ و به راه همانا روزها مانده بر این رسیدن و به ما سرنوشت و خیل جوان که خیشتن به راه این شده از آرمان پا گذاشتند به خیابان آمدیم و جلب نسان بر این سرشت در آن همایش ها رفتیم و سخن شنیدیم و گاه سخن راندیم و هر جا هر کس بدیدیم او را به تغییر این روزگار فرا خواندیم در خیابان دو دسته به نشرفگار خیش همت گماشته بودند و سخن از آن آرمان خیش میراندند گاه نه از خود که بر دیگری میتاختند و با چالش او بر برخیشتن میبالیدند و ما که در آن میان بودیم خیشتن میگفتیم و میشنیدیم در آن روزگار. این دو دستگی فریاد میزد و گاه به خشونت راه داشت. قشری جوانان که سبز پوش بودند و در پی سبز داشتن دیگران و آن دسته که بیرق اشغال بدهست فریاد سر میدادند و با دیده خشونت و کینه به ما می که فریادها از این جمع سبز پوش به هوا برمیخواست خواست و سیب زمینی که نقلان مجلس بود و آن بیرق به دستان که با چوب و مشت به استقبال میآمدند و فریاد نفرت سر این شهر نفرین شده به مدد از آن کاخنشینان هماره دو پاره است گاه والا دارد و گاه پایین نشینان عجبا که والانشین از ما بود و پایین نشین بیرق به دست نه هر جا که سخن به بتالت کشیده شود لیکن سخن از خیل نسان است این دسته فریاد میزد و آن دسته ضرب در این کشاکش چه کسی به فکر آن رهایی که همه در خیم شب بازی بازی خوردند و بازی دادند لیکن خروش پس از آن روزگار دیر و دورتر جای سعادت و مسرت است ما دیگر جلب ها کرده بودیم به حد توان گفته و شنیده و در پی نگاشتن تاریخ این مرذوم به نظاره نشسته بودیم همان شب به یاد مانده که جمعی از آن جوانان به دور خیش جمع شدیم هم پیمان که اگر حق ما را ستاندند فرو ننشینیم و برخیزیم و آن پلیدان به زانو در آوریم فرایان سخن که به کام ما تل خامد همان سخن مکر و مرگ لیکن چه شیرین چنین سخن میان جوانان که دگرباره زاده شدند و از آن سکوت برخاستند و بر طلب حق حال هرچه باشد به جوش و خروش آمدند آن پیمان و چه شیرین به کام ما که گر از تو حق ستاندن تو برخیزی و حق پاس پسگیری گیری که نابخردان هم بدانند حق گرفتنی است و ندادنی همان شوله آتش زیر خاک سر بود که در آن روزگار دیر و دور جوانانش برخواستند و تنها فریاد برای خیلی انسان کشیدند و حال هم همعت دگربار در طلب حق خیش همین جوانان به پا خواهند خواست و دشریمان به زانو درآورند. چه فکر و چه قدرت در آن روزگار به ذهن پرورانده بودیم و دوباره زاده شد روز موعود فرا رسید و گوش ها در پی شنیدن به نظاره نشست و چه مقموم آنتن چه نام دگر شنید و حیران شد از این روزگار آن روز نیز برگ دیگر از این خاطرات است بامدادان با جمعی از این جوانان که ما هم در آن میان بودیم به دخمه نشیده و در انتظار پاسخ سرنوشت خیش و ناگه آن ساز ناکوک نواختن کرد. و آن نام دگر گوش رسید به دل چه احساس که نظاره نشستن آن جوانی که ماتم نشسته آن تنک می میریزد و ناله سر میدهد و من که در این منظر غمین و مقمومم از این سرنوشت از دیدن این سیل جوانان که نالان است، نه از آن کس که بر تخت نشست تا دگربار اسباب انفعال به پا دارد که از دیدن غم دیگران به امید در این ناامیدی که آن قاضی شهر دست خونالود خیشتن به خون تن دیگران میشوید و آن بیگناه که سرمست رهایی به زندان است و مجیز قاضی را سالیان سال میگوید. در این قهقرا که غم حاکم بر این دخمه بود به ناگه فکر بران احت و پیمان مرا بار دیگر زنده کرد و آن کام تلخ به شیرین مبدل همه مقموم و مسکوت فریاد برآوردیم که آن شور و خروش آن فریاد شما که حال خزیده و در گوشگی نشیده اید و خاک ماتم بر سر خیش ریخته برخیز و فریاد برآور که ماتم چاره بر کار ما نیست همان کس که چشم گریان داشت برخاست و فریاد زد حق خیش میستانی و از آن کنندگان رای خیش باز پس میگیریم و آن دخم از آن غم به رهایی خواهد رسید و آن آهنگ خوش بر خود خواهد گرفت هر کس سخنی میگفت فریادکشان فریاد کشان و هر تم بر شور با سخن دیگری افزوده می و من دگر سرمست از این خروش برخیشتن بالیدم سخن از رعد بود و باس پس گرفتن آراه یک صدا و یک دل فریاد میزدیم. آنان مبهوت نزارگر بودند و این ماییم که ز اندام خیش بر این دشقیمان ترس روا داریم و آن دخمه به تکاپو و این سیل نسان که سینه ستپ جرد و آنان که خمیده نه سخن دارند و نتوان توان سخن راندن که ما یک سره فریادیم در این بین چه فریادها که تنین انداز گوش بود هرچند که سخن از رهایی نداشت و در لفت وافه در پیام بود لیکن این فریاد مرا خوش که سراغاز بیداری است و فراتر از آن که خیشتن در پی جستن همان برابری در این برامدم، سخن سخنها به ما می رسید و گاه شاد و سرمست تقیان دیگر شهرها و ما که در این شهر نفرین شده نشانی از آن انبوه دیگران بودیم به خروش بیشتر تن میدادیم و فریاد همان منفعلان شدیم و دگر شهر رنگ تازهی به خیش گرفته بود هر جا سخن از این کردار به گوش می رسید حال هوای آن ده سال سکوت پاره می شد و منی که به سودای همان شور پا در این بیغوله نهادم حال دست به سوی آن آرمان والای خیش دراز و به جستن امید امید پیش از دیروسترها را فریاد دارم گاه سخنها و حضور آن کسان از تاریخ گذشته به ما یاری میرساند و گاه به مسکوت بودن طلب داشت و حال آن که دگر این چه بسیار چمن که خط تاریخ نهیم و خیشتن آن بنگاریم نگاهم به سوی یود و آن مرد را به نظاره نشسته بودم که فریاد میزد رأی من کجاست؟ نه او یک و تنها که جملگی همین فریاد سر میدادند و آن مرد که از آن خیل جامانده و قشون مرگ و جه به سویش روانند؟ صدای آن مرد به گوش زنگ میزد و کردار آن دیوانگان به رو زخم مرد سوی از رأی و نظر خیش دارد و مشت لگد به رویش پاسخ است من از آن دور و توان نباشد به یک تن که رهایی رساند به این درخواب ماندگان همان مرد به زیر پاست و چند تند خونخواه در پی نوشیدن خون او و این خیل که از جهل و ترس به خواب خفته به نظاره نشیده است و آن مرد و فریاتهایش که در پی آرای خیش به فرجامی از مرگ رسید و آه از نهاد اینان بر نیاید نشاید مرد که آن داستان پیشین بندگی که به گوش ما ناخوش و ناکوک هزار بار تکرار شد و نخواستن که فهمیدن همان و آن تن بیگناه. در این انبوه فریاد نظاره بر کود دیگری کردم آن تم بدیدم که باز فریاد این رعی سرداد. صدشخین به سویش روان آنکه از جملگی به دور است دگر پاسخ این رعی ضرب بود. چه وساجر؟ جر لیکن این خواب و کابوس به فریاد سرکش آن دلیر پاره گشت آن تن به زیر دست و پای آنان در انتظام فرجام مرگ و اسارت دشیده و حال آنکه تنی دلیر به میان آید و پاسخ چنین دیوانگی را به آن دشخیمان دهد فریاد این دلیر و ایستادگی بران ضرب و جرد بیدار کرد سیل ها و بران سدشخیم حوار کرد و تو دانی که فرجامشان ترس بود و فرار به بر بران یار دگر فرجام ساختیم و نه تنها همین روز که سالیان از سکوت خیش که بسیار نسانها که به جوخی دار و به تیربار فرستادیم که اگر فریاد میکشیدیم و عقب نمی نشستیم کجان شجاعت در چنین جاهلان که کمر به کشتار رهایی بندند نزجه از مدد ز شجاعت که به پاس سکوت این جماعت است روزگاران در پی یک دیگر می گذشت. ما صفحهی بر این تاریخ می نگاشتیم. خبرهای بد بسیار بر ما روان بود و سعی که با خروش خیش همانها به پشت سر نهیم خبر از دگربار بار مسکوت ماندن آن شهرهای بیدفا که وفا بر عهد نکردند و دور ماندند خبر از زندان کشی آن جلادان که کار جزیم بر آنان خوش نبود که نباشد که ما با سکوت بر این جاهلان میدان دهیم این خبرهای بد به ما چه ارزش اگر خیش آهنگ سعادت پیشه کنیم خیابان سرایمان گشته و فریاد صدایمان. دیگر آن روزگار پیشتر سخن از رأی و آرا نبود و فریاد سوی دیگر رفت و چه خوش بر من آن تهمینه که به صدای چنین روزگار پا در این نفرین سرا نهاده و فریاد میزنم سخن از این استبداد مرگاور بود که چه انسان ها در این سرا برده کرد و بنده بی هیچ موزد و مواجب حال دیگر روی این فریاد به پیش آمده بود و فریاد در گلومانده ایران سر باز کرده است جنگ اکثر و اقلیت این سخنان پوچ و پوشالی این چه روزگار که آن ناله های نخص جای خیش بر این فریادهای رسا داده و لرزه بر تن آن دشقیمان انداخته که چاره به خیش بندند که با هر تیغ شده سر برند این خروش آزادگان را از ما چه بسیار آزادگان رو بودند و گاه خیشتن مقصر بر این بیداد که چرا سینه ستبر نگردی بران دشیم که غصت رو بودن داشت تو آن چند که مسکوت مانده ای برخیز و نهراز که حراسیدن هزان آنان است و هماره خواب خیش به ترس جای دادند لیک از جونی سکوت جهگاه آزادگان که سبب بران قول و زنجیر گشت گاه شنیدند به خود نفس از ما رو بودند که از آن چه بسیار آزادی که ترس به خود راه داد و عقب نشست که چرا تو مسکوت مانده ای و آنان هار اگر تو فریاد میزدی آنان طاعت پیش میگرفتند و نه این گونه فرمان سر دهند و از خموشیت باز تاج بر سر نهند آن روزگار آن فریاد فریادها که دیگر نبرای جستن حق که تعریف آن ندانسته چه بسیاری کورکورانه از دیروز و امروز و فردا فریاد زدند همان روزگاری که ما را بر این منجلاب رساند و آنان که ندانسته گردن به حق‌طلبی نهادند ندیگر آن نبود و تیشه به ریشه این جهل و خونخاری میزد. دیدن آن نمادهای آزادی، همان دختر آزاد که خونش فرش این شهر نفرین شده شد و سیمایش چهره رهایی از این آدمان در قفس، دیدن آن پسری که با جان فریاد زد و آن جان را نسار این خلق در خواب مانده کرد و آرام به گوشه‌ای خفت که به خفتنش جماعتی را بیدار کند. این فریادها ها که دیگر همگان به مبنای آن پی برده و دانستند که چه فرجام بر این را خواهد بود آن خونخاران را بران داشت تا به جنگ پیش از پیش بر این فریاد روی آورند و آب سخن خیش به پیش برند نه پاسخ به فرکات چون آن هنجره در فریاد را ببرند و خاموش دارند سیمای این دیوانگی نقل کشتار کرد و تجاوز که ترس ریشه دواند و خروش که عقب ماند چه خونپره است آن تن که در این دیوانگی گردن به زیر پای آن ننگین تن نهاد و فرمان بر ریشه از رهایی را چند؟ کجا آن خروش آن عهد نخست که ما را چنین سرمست تقیان کرد و به آن آرمان شده از مکر و مرگ چنین فرجام به ترس خواهد داشت و خروش که جای خیش را به روب تسلیم کرد و فریاد که با جنگ بر هراس مقلوب آن دیوانگی افسار گسیخته عاشقان بر مرگ شد از آن خروش نخستین که انبوه انسان در آن فریاد میزدند روز در پس روز دگر کمتر و خاموشتر میشد که آن خود از خون پرستان افاقه کرد و ارعاب بر این جماعت مسولی شد در آن واپس روزگاران خوش بود که دگر بار سیاه‌چال به هیچ دیدم نه چنان دورتر روزگار که میان نسان سخم می و در این بیغوله هماره به رفت آمد بودم حال دگر آنان هار و مرا در بند کشیدند و از برای بزه که خیش به سر دارند این بار مرا هر گویی در پندار خیش پنداشتند هم جرم و هم گناهکار هم فتنگر و هم بزهکار هم آشوگر و سطح دیگر و در این سیاهچال که نمور بود و تاریک همانجا که نقمش ناله و فریاد دیگران بود من در بند به خیشتن فکر میکردم و از آن روز نخستین که صدای پای دیوانگی مراز خود بیدار کرد یکی خونپرست بود و تشنه بر خون که بر روی این جنازه در خون غلطیده خوش و خرم نقمه دیوانگی سر میدهد سخنها که گره خورده و آن افکار بیمار این هرزگان مرا که در این دیوان سراب هزاری جرم بند کشیدند لاکن نه سخن از زنا در میان بود و نه مساحقه چه بیمار ذهن است آن ملای ننگی که به تخت نشیده و مراد است و این دیوانگان که به گل نشیده مریدند و این فرجام از آن آرمان دیوانگی که ملای یکین و پیشتر ز دیوانگان بافتند و ایمان قرقره کردند آن سخنها که گاه پیرامون شهوت بود و گاه پیرامون جرم و جنایت روح و جانم آزرد و سمرش آن تکانی است که گهگاه به دست بینم نسخم فرجام چنین آزادگان که اینان خون خواهند و دیدن عذاب این عاشقان. یکی گفت آنکس همان برومند به خون خیش قلتید، اوست گرد ما ندانستیم که چگوید و حال آنکه که خیشتن به خون خیش قلتیدیم. چه کس توان داشتن چنین نقل دارد سخن هاوان ترکه ها بر جان یادگاران آن روزگاران در بند هماره به پیش ما خاطر است و با مرورش به ارزش والای تو رهایی ای تو رهایی گران بیشتر پی برده ایم. در این خاطرات نگاشتن به یک روز از سیاه چال بسنده کردم همان روایت کنیم که بدانند و بمانند در این عزم و رزم به هر جا و هر سرا که نشنیدند و اتاقی نشسته چندی است بی سخن و بیار از آن دورتر صدای ناله ای مرا به عشق وامی دارد و جهگاه از زجه های آن زن رعشه به دارم. سخن از تجاوز آن روزگاران نقل محافل بود به این صافت خود کردند و ترس بر دلها نشاندند و حال من در این دخمه و سطحا فکر بر این دیوانگی لرزه بر دارم. به ناگه دری باز و دیدن دشیمی می خونخار همان مرید، آن مراد خونخواه چه سخن بر ما که شرم نگاشتن و تخیل بران چه آن روا دارد و من عشق به پاسخش سخن شهوت است آن فکر بیمار که ما را در این سوک نشانده است گاه فکران هربه کثیف این شهوت پرستان و گاه عشق روح که چه سخن دارد از این دیوانگی در این میان دگری درون اون آید به ضرب صورت به خون کشدان شهوت پر از سخن از باج کند و از خراج و خون پر است خون ریزد و تن داغ دارد و فریاد چه کس فریاد رسان گران خلوت و آن تاریکی که هرگاه تن و روح زخم تیغ خرید و جریان به سوگ نشست چه بسیار فکر بر این فرجام و تکرار که ما را در آن مکر و مرگ مسکوت و در این سیاه چال تاوان برای برایانان بلکه من و این فرجام که به صدای رزم خیش برخاستم و حال آنکه آنان سخن راندند و جماعت شوراندند و فرجامش به هیچ به فکر نه این فرومایگان که خیشتن بود و چرا چنین فرجام نه فرجام خیش این سیاه چال که از آن زندان و این زندان توفیر بر شکنجه بود و هیچ به فرجام چنین کشتن فکر بود تا دگربار منفعل و مسکوت به کناره نشست حیحات <هی> که نبود آن آرمان چنین کرد با آزادگان که آرمان شده این مکش رو مرگ پرسان به ما هدیه داد چنین فرجام پررنج و چه دردناک از آن رنج در سکوت کتاب <pas andözök loves> <سؤال> تخمینه اثر نیما شهزواری بخش هشتم چندی در این سراب اسارت نشیدیم و روزگاران گذر و دیدار خونخار تگو هموطن. به دستان قل و پای به زنجیر صدا و دالان بیدادگاه ملایان چشمان خون گرفته و نگاه نفرتدار و این اسیر جنگی به دادگاه نظام بر جستجوی وکیل و دشنام شیخ خان. خجلین گوشه غم آلودمان در انزجار شنیدن آن حس ختام از فرمان شیخ نشین در اسارت سه ساله تهمین دخت عشق صدای پدر آید و آن باد و عطر از دوست حقه غزان مادر درمانده یار اوست عشق در چشمان خوش نزغم شادمان که ریخت فرجام سرکشی هیچ بود از هیچ و هیچ در دو یار لحظه آرمیده و بیفکر بر روزگار فکر کردم به توی آرمان و رهایی تو یادگار این نمایش غمناک و این پرده زندگی این نمایش داد و فریاد بیداد از تو هرزگی نگاه مادر سخن دارد و گریان است و پدر دگر پشیمان است و باز در گوشمان همان بحث تکرار زنگ بار چه آزادگان در بند که بی تو آرمان تکیده و رنجورند و فقدان تو یگان راه پیروزی و آزادگان را چنین شکسته و درمانده به سوگ خیش نشانده و آن ننگ تر از ننگ به تخت نشیده و هلهله بر مزار فقدان تو آرمان می کشد من در این سیاه چال و صدها چمن من در آن بیرون از این زندان سویوار دیگر نسان در آن بیغوله چنین میاندیشیدم و یا امروز چنین میاندیشم چه توفیر دیگر بر این امر سه گذاردم که چنین میاندیشم فقدان تو آزادی مرا بر این جایگاه نشاند و چه که هم رزمان و چه بسا خویشتن ندانسته چه والاگهری دور از ما آرمان ما نبود در این دخمه که اشک یار غم و غم که یار ماست چه حیران به دل شدم آن لحظه شادمان عشق گوش میشنید و ذهن میساخت و دوباره رزم آن روزگار و خیابان و فریاد و جنگ زیباتر و والاتر ندیدم از آن آن سیل نسان و فریاد رهاییكنان اشک ز چشمانم جاری بود و دل پر از امید و تصویر هزاری نفر گوش که میشنید بگو آزادی آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی زمانی بگذر و دل چنین شادا بر ما زمان بده که عشق نریزد و غم نسوزاند چنین جانا گذر روز از شب و هم شب از روز ما را به خیش نخاند مگر ترسیم ذهن آن روزگار گاه به دیدار یار نشیده و سخن راندن و مادر نوازش رخسار ما و ما که مپوت به اندیشیدن خیش کلنجار و تعمق به جنگ پدر سخن راند که آزاد دخت اش رهایت کنم از این سیاه چال و این ننگین سرشت تحمین به خود آیا بر رهایی خیشتن شادمان باش که آن خلیفه خراج دهیم و دخت از اسارت بگیریم و منی که بر فکر تو رهایی بگریم و دگر بار از آن زندان بر این زندان چه کنم تو گو و در غم هل هل کشان عشق ریزم نصف راق دورگت که نشناختگان در پیت آن روزگاران پر از درد و رنج گذر می کرد و چه به حال خوش گر از آن تلخ و مصیبت ذکر کنیم و گوشها را به عشق بسپاریم و دلها را به یأس دیدن و دیدیم. در این زندان بزرگ که ایران نامان سیاهچال نمور که ایران نام و این من مپود که در فکر به سوگ فقدان نشسته گذر کردم که دگربار و دگربار نفریاد که بدانم و به دانستن آنان ره سپار کنم. نفقان سرده هم که آرمان بگو سرانم و بیدار کنم آن سیل به خواب ماندگان را پدر سرمست و شادمان در آغوش کشیده این تن رنجور و پردر را و مادر که سخن راند و مسرور هل, هل زر کند و این من در حال گذر آن زندان و بر این زندان دگر بار به زندان بزرگ من بازگردم و حضینه پدر خراج است و مادر به باج و آن ننگ شیخ نشیده فرمان بندگی و آزادگی سر سردهد. تو خود بین و هر چه خواه بر این بندگی و آزادگی نامده که ما خریدار تو بندگی بر چنین آزادگی از اسیرانیم. تو این ننگ شیخ تحقیر کن که تحقیر شده یو و سر به خاک بزن و طالب خاک شدگان باش فرمان اسارت ده که سالیان اسیری و فرمان آزادگی ده که خجل رهایی گریزان از چنین بندگی و چنین بردگان به خاک والای تو مازند که دیدنت همردیف آن بالا گهر است و این ناس پاستن پس از سالیان فراغ به دیدنت آمده به روی سخن نرانند و نگاه پرسخن مرا بس که بدانم چه به دل اینان مانده و گفتن نتانند چشمان آن زن فریاد زند و مرد همچنان لیکن توان گفتن نیست که به حال چنین گوش خسته امان دادند و گوش رنجور نشنیده در جوار یار زیبای همان مازند پیران صدای دوستان التیام بر چنین تن رنجورتن. تن بهران آب و صدای زیبای و دل خوشش چهره آن دختر بینم آن زرب خونپرستان دیارمان فریاد و خراش پسرک تن پر از درد او عشق از چشم جاری این آب بردنت برو بروی آن پیرتن درخت والا نشیده و نظاره بر تن آن دیدند صدای ناله و شنیدن زخم تن عشق ریزت این بار نچشمان که آسمان و نشیدم بر این سنگ پیر که از عشق شوید چنین رنج و غم را پدر این سخن راند و مبهوت بر این مرد پیر نشیدم و چه او چنین آن سخن دور مادر به زبان آمده است و ساز رفتن از این دیار به گوشمان میرسد ندگر سخن پدر آن دیروز آرمان دیده است که نبود از دیروز و یا براه ما مرده امروز است رفتن از این سرا چاره کار این والدان و من هم شنونده در فکر بینمان روزگار چه فریاد آمد و جان فدای ایران شد چه شدن سیل نسان و چه پس فرجام من مادر آری دگر بار به نطخ آمد و هم صدای پدر نه چون دیر بازان به نظاح چه همتای او ساز و آواز رفتن سر و من که زندانی این آن زندان کوچک و بزرگ شنیده به شهر نفرین شده اندیشیدم و بس پدر فریاد زند؟ رفتن صلاح نیست، بنشین دختر و این گونه نکن بر ما و مادر که عشق ریزد و طالب رفتن زودتر از این سراس و این منو اندیشه بر شهر نفرین شده که باید ببینم آن را و پس از آن تصمیم گیرم و فریاد پدر که از شروط رها دادنت چنین نبود و من بار دگر از رهایی و لبخند تلخ بر این تخفه دیوان پرسان. این چه سه نست و شهر نفرین شده کجا آسان خروش خورده نگی رمز تو که نبود آرمان به ما تنهایت گذاشتند و ارعاب به ما پیروز گشت که بی تو آرمان نسان قدرت جنبیدن نداشت کجا آن آزادگان خیلشان در بند و هیهات که بیششان در هجر و حال من و وجدان با افکار و تصمیم بر سرنوشت من آزاده مانم در بند یا رهست سپار دیار دور و یا آزادگی را به بردگی فروشم هرچه تارمده دهم برای تو ای مردگی نأمید است و یه از فرمان این سیل خوش بر شما اسیر و اسیر پروران شما مک و مرگ و ننگ پرسان که تخم اسارت و یه از کاشتید و چنین بردگان درو کردید مرا چه امید بر این شهر نفرین که بی آرمان فریاد کشید چنین سهل و ساده به خون نشست بر برآورد به انتقام همان یار انتقام جویم در رهایی معنا شود ده سال مکر دیروز آن منفعلان من تو تاریخ نویس از این مرگ پرسان و این جماعت این همان شهر دیروز است که فریاد میکشید و در خروش بود چرا چنین مسکود؟ دگر بار من آن سیاه چال نمور صبح و شب و خیال پاسخ که همان تکرار نقل تکرار من و فقدان بران یار ما و دیدار جستجو کنم و پاسخ از دور بشنوم که مردگی پسندیده و در خواب رفته و آنکه آزاده از جهان رفت زندگی کند آن که از دیار گریزد و از این ننگ دوری گزیند و آن کس که سیاه چال ننگ پرسان به اسارت نشیده و من که در چنین اسارت در پی راه و چاه خیش بر یاران کنم به آیندگان و چه بر ما پاسخ رسد جز فکر و فکر و فکر شهر نفرین جای به ما تنگ دارد و هوای مازند به سر خوش است. نه از این شهر نفرین هیچ جز و ترس برون نتراود و ما که در فکر آرمان نداشته دوری گزیدیم و رهز پار همان مازند پیر و آن مرد و زن چشم به دهان شدیم. پدر چه روزگارانی در این سرا گذر کرده و حال در این کهولت به کجا خشته تازه گذارد و بنای دوباره سازد. آن زن که سالیان پیش ازم داشت و به وفای ما نشست و سوخت حال در این پیری در خانه که زند و از که طلب به مدد کند و چنین حال آن مرد زن و پیر که ما دانیم و همانان لیکن مسل به رفتن و گریختن از این دیار که مسبب من بودم و باشم و آنان پر از ترس به حال من که اسیر شدم و روزگارم به سیاه چال مرگ پرستان گذر کنم و یا زن و آن فکر مرگ که طالب مرگند و نخواهم دختر قربان راه این پلیدان کنم صبح و شب سخن از رفتن بود و منی که دانم نیت قلب اینان را و پدر که دم آدم سخن گوید از تمام این باج و خراج که تو و سراید و دیگر بار سپار پار چال آنان شوی. این نقل تکرار بخشی از نیاز زندگی من بود و هر بار سخن از آن نقل مجلس من گاه ایدهای بیان می شد و گاه تنها هدف رضا دادن من بود گاه فراتر می رفت و چهره به فرمان می گرفت و گاه کار به شکوه می کشید. در این سخنان تکرار روزانه و گاه شبانه هماره شنونده بودم در این بین پرز تعمل و تعقل لیکم به ناگه به سخن آمدم و نهای افکارم برون کردم هر دوی آنان مبهوت به نظاره نشستند که چه گوید این دخت ما و من که گفتم از رفتن از این سرای اسارت دارم و از این دیار مکر و مرگ و ننگ پرسان بیرون روم لیکم بی شما که این راه من است و بر شما چه دخل نخواهم رفتن موجب رنج شما شوم تنها شرط من برای رفتن همین است که روم از دیار لیکم بی شما حال که پدر پس از ای پام سخن راند و به ما تاخت که بی ما نت فان رفتن ما جست کسی نداریم و مادر که گریه سرداده و با پدر یک صدا چنین گوید و من که از اینان دلکندن برایم سخت ولی چگونه بر خود فائق آیم که بر این پیرتنان چنین رنج سفر تحمیل کنم و آنان در این جهان بیمار سرگردان و آواره که نپاداش این مهربانان چنین نیست که در درد زندگی گذران کنند و رنج آوارگی به دوش کشند چه ساعت که به کلنجار گذشت و من گفتم و آنان به آخر به عشق در آغوش هم تصمیم من به جد شد و عزم رفتن من به تنهایی به کرسی نشست است و چرا تهمینه تو این سرا گذاشته و رفتهی؟ نه اگر به صدای رهایی این دیار زنده و زندگی کردی و حال چه گذشت بر تو که ساز رفتن سردادی و این صدها سوال به گوشمان من تکرار شد و چه پاسخ بر این وجدانمان جز که من تنها و هزاران تنها چه سود کنار یکدیگر به میدان نیاییم و فریاد نزنیم چه شود بر ما تشنگان آزادی که ندانند معنای والای تو را اگره رهایی چه سود این دل پردرد ما که ندارد به خود التیام که بیند متحدان آرمانگرا که فریاد سر میدهند و پای عهد و گفتار خیش بمانند و هم بمیرند لیکن نه ارعاب که هیچ آنم تکان ندهد و با چنین تهدیدها قدرتمندتر و والاتر گام بردارند چه سود از این صد هزاران سخن آن روزگار نبود و بود و بر ما چه چاره جز ازم رفتند از این گفتیم و از آن بر دل پر است که نخواهم رفت و بمانم در این سرا و هم بخوانم نقمه از آزادی در این کهندیار لیکم باز شبهه و باز تردید که تنهای ما چه سود دارد در این سیل دیوانگان؟ نبود امید و دل پر از رنج از دوریان مازند و آن هم و آن یاران پیر که قطره ای از تو امید مرا به جای می نشاند و ازم رفتن ز ما میرو بود لاکن نسود و نامید، امید که ما با شبه و بی شپه از مرفتن کردیم و ناگذیر رفتیم و نماندیم پدر به جیب ما توشه سفر نهاده و به روی من توشه محبت و آن مادر که با کلام و نگاه و عشقایش عشقای گاه به دل چنگ میزند و ما را به جای خیش میخوب و گاه پر از محبت به نظاره است. کوهدهش به نظاره من و این پای که یار ما به جستجوی رهایی پرسه میزنیم. این چه خیلی از ایرانیان است که جملگی از مرفتن دارند و بیچاره ایران که تنها بنشیند و ماتم دهد. و این من که حال یکی از آنان و آن یار بیوفای من این فکر به سر دارم آن کس که خواب رفتگان را بیوفان آمد و آن کس که مرگ پرسان را بیوفای. چه سیلی در آن روزگار نخست اعتراض در خیابان بودیم و فریاد سر میدادیم که این فریاد مزهک است. از آن مکش و مرگ پرسان که تو آرمانگر به ما یار بودی. همان روز تخت اسارت میشکسی و رهایی حلیه ما گر تحسن راه ما بود و آن آرمان یار ما چه داشت آن ننگ که بتازد و چنین دندان نشان ارعاب بی افساید و سرمست بر تخت اسارت و قدرت چمبره زند و صدای آن مرد راهبلد که گوید بنشینید و مسکوت بر جای خیش کام بر نیاوری و من که اندیشیدم بر آنان که با ترس سخن فرو خوردند و یا آرمانشان چنین ننگیم بود و چرا چنین ملت شورید و بران سخن مک و مرگ پرستان هیچ نگفت همچون ما در این بیابان به خود راه بلد جزان خونخواران کمتر دست به خون برده. هی هاات بر این سرنوشت حال نویسم و یاد آن روزگار ندانم که چنین خواهم نوشت. بر خیشتن ایمان بدار که خیشتن گربا ها می نویسی سرنوشت و تاریخ را؟ این کلنجار بی پایان به چراغ راه آیندگان و این ما که بران سرزمین رحز پار که در نبرد آزادی هم پای و گاه چهتر و گاه برتر و حال چه فرجام و ما را چه فرجام و چه خودکامگان که این سرنوشت نوشتند و من که از زیرباز بران باورمند که تاریخ از آن نوشتن است و هر کس توان قلم شدن بر آن دارد ولی نتوان افسوس نخورد و از آن نگذشت هرچند شاید دران روزگار فقدان تو آرمان چنین بود و شاید که هست فکر بر این روزگاران آن دیرتر روزگاران یارمان و حالگاه فراتر از دورترها بر این حال فکر کردم و دیدم ما در این دشت و کوه سرگردان و آواره گم شدیم و هیچ راه امید بر ما خوش نیست این فکر از نگاه دیگران به من میدمید و با صدا و گاه نگاه به پیش می‌رفت و بالو پر می‌گرفت تا آنکه ناگه تار این افکار پاره شد و در پیش روی نقطه پایان این عزم دیدیم و حال دگربار همان افکار دور چه خواسته بر این ما ازم ندانم لیک اگران خواسته چون این ازم بر ما روشن بود و فریاد من سرکش راه بلد من مرک پرست نبود و از خیشن بود که یک پارچه من اوهان به بافم تو ببین این چنین پایان راه حال تو بیاندیش بر این پایان و آن پایان که اگر راه بلد آن نبود و خواسته روشن و پایانمان چه جز این اسارت دگر بار در این خاک اجنبان از چاله برخواسته و غرق در چنین چاه؟ از آن اثارت برخواسته و غرق در چنین بردگی این چه سیل از یارانمان من که در این اسارتگاه به بند نشیدند و چه سخت که گاه برکی از آنان به من آشنا و دیدنشان چه سخت؟ گاه اشک ریزیم و در آغوش یکدیگر ناله سردهیم فرجامان راه و راه رفتنها رسید به چنین اندرزگاه و سیاه چال در قدرت که نام ما نزندانی و این پناهجو و نام این سرا نزندان که اردوگاه که سرمه که در آن خاک نام شهروند بود و نزندانی نام آن سرا ایران بود و نزندان چه اسیر زادگانند این جهانیان که اسیر میپرورند و می میشوند که دیگران بر اسارت گیرند و سرمست هل, هل سر دهند چه یه است در دل این هم همرزمان دیروز و هم پیالگی های امروزمان چه آنان به تخت نشسته اسیر و اسارت پرورد و اینان آزاده و آزادگان پرورند چه سود که آنان به تخت اینان به هست ریکن ریکنین دل شاد باش که تو رهایی و اسارت از آن هر پرسان است چه بر آن مرد و زن پیر گذر خواهد کرد که باج دادند و این تن رهایی و حال در آن چه فرجام بر آنان خواهد بود این بار نبر دور دست از فکر و آن خیال دیر که بران آن پیرتنان فکر و فرجام این و آن اسیر به راه نیز بر آنان فکر بود و حال به طغیان رسید و خواهم خبر رسد بر ما از آن پیرتنان و آن تشت که گوید چنین کردار بر آنان گران آید و فرجام بد دهد لیکن این تقیان توان خاموشی نبود و خبر جستن بشد کردار ما و شنیدم صدای آنان التیام این چنین آوارگان او در چنین دخم چه فکر بر سر ما آنان که آینده مینگارند و به جست و جوگند و آنان که برگست نشیده و در آرزویند آنان که شاد و مسانه در تکاپویند و من که بر این زندان تازه نظاره کنم و بر آن زندان کهن یادواره کنم اسیران سیران برخیزانند و به اتاقه کی رهز پا پرسش از آنان و پاسخ ز شما که نیندیش چنین اینان خیش پر از پرسشند و چه پاسخ به خود همراه نشیدم به کنار آن پسر که از دیارمان گریخته چنین من به زندان اجربان داده و در پی پناه از آنان گوید چه اوم بر تلف شد آن خاک که اجداد به ما یادگار دادند و پدران آن راز ما ستاندند و چنین سرگردانمان من کردند و این منان سخنان شنیده و به یادان مرد و زن پیران جنگ بیپایان که اینان چنین دنیایی به ما ارزانی دادند و آواره کردند. تو پاسخ گوب بلی و خیش را رها دار. از چنین احوال تو پیروز گشتی و آنان به فکر خیش بهروز اما چه سود چنین پرسش و پاسخ که خیشتن گوی و خیشتن پاسخ دهی و درست گفتی؟ تو راستی؟ دیگر گوه که چه سود به حال ما که گذشتگان بسیار چنین پنداشتند و چه دنیا مسکوت ساختند چنین منفعل که هزاران سال در یک چاه ماند و دست و پای نزد و غر شدن خیشتن به نظاره نشست و گاه نالهی سرداد و از گذشتگان گفت و گاه وظیفه بر آیندگان گذاشت و خواب بود گاه خواب بود و گاه خواب است این نقل خواب درد زبان آن پسر گوید ما چه پاسخ زما در آن روزگار جز این فکر حال با ماست و شاید از آن دیرباز زما که به جرق روشن شده چنین فریاد کشد که خیشتن بساز بر دیروز روز و بیندیش و درس گیر و تکرار نکن لیکن نه تو از آنان بهره بری و نه آنانز تو که تو خیشتن توان هر کارداری و چنین افکار و گفتارد ورا ز خود روبوده است این چنین مسکوت و منفعل بر مردگی تاراج داده چه پرسش ز ما که آیا سخن راندیم و فریاد اعتراض سر دادیم که از این اجنبرسان وطنی همان یاران مکر و مرگ و ننگ از آب کشیده و رنج برده ایم چه مدرک ز ماست تو رهایی نشن و اینجا نمان که هر کس آریه گرفت و خرج کرد چنین است و والا گوهر بنامت اسارت هدیه داد کتاب تحمینه اثر نیما بخش نهم از این دالانها پرسش پرسشها و این دخم سال گذر کند به سال دیگر این سیل پناهجویان جویان ایران زمین در حصر اجنبان گذر کند زندگی را چه تلخ که تحمین عمر در زندان گذر کند گاه به گاه زندان نو به خود ببیند توفیر میان آن و این شکنده و گاه قربت و گاه حسرت است چه یاران به خود دیدم اینان که انسان و شما به دنبال جرعه از نوش داروی من آزادی آن کسان از زیار سرب و باروت آن کسان از زیار جهل و کشتار و این ما که از سرای نفرین آمده در این بیغوله اسیریم و یار یکدیگر نشنب به هم که از هر هموطن به یکدیگر نزدیکتر و آشنای همدیگریم و فکر بر این روایت اجنب و مپوت از آن که هم ریشه است و اینکه دور تنز ما و آن که یار مکر و مرگ است و این که یار رهایی همچون ما و حال که اجنب بر ما و که هم یار و تن نام به یک تن از اینان علی مراد بود آن پسر که هم سن و سال که از دیار افغان بدین سو شتافته و در پی ساخت دگر بار زندگی است گوش به سخنانش فرا می دهیم و اشک چشمان چشمانمان آلایش کند و آه و افسوس برآوریم از این روزگار و از این مردمان. چه گوید و چه شنویم؟ از آن مردمان که نه اجنب از خون، از وطن، از خاک یکدیگر و حریص بر جان، چنین برناتن از دیارشان. جرم اینان عشق بر یگان گوهر والایمان و حکم از آنان مرگ و مکر و حال اجنب به این و آنان، و اجنب به من و آن اجنبان درون من چه دختر و پسران از دیارمان من که حال بیکس و تنها در این سیاه چال گذران کنند و چه بردل ما جز ماتم که بیند اینان را چنین در عذاب از ملک خیش رانده و در سرای دیگران وا ماندند وا مسیبه تا خاک ناسپاس چه هزیان گفتن ما بر این خاک که سخن نگفت و چه بسیار ناروا شنید از کس و چه بسیار ناکسان سختتر از هر سختی آن روزگار پرسه و پرسش با آن مدد جوی و تکرار آن هولناک زمان و رشه بر تن اینان و گاه ما در حال نظار و زار ماچه از نو سرودن این شعر کهن و باسخاندن آن گذشته پردرد که دیگر بار به تکرار آید و این بار دورتر از آن سرا، آن دختر و ها و پاسخ بر آن پرسش چه داند این رسم روزگار آن تنک پرسد و هم شنیده چه روی با چنین روزگار زندگی کند تو چون سنگ صبور بنشین و حال و درد آن دختر و وطنم آن خواهر برناتنم که سرود سردهد از آن رنجهای بیکران از آن هر تن و فریاد بی صدا آن دخمه تاریک و دستان بسته و آن هرزنام نام که مسته حقارت خیشتن و سرور به خیش. به لذت شکنجه دهد و از عشق این تن بخندت تو بشنو چگونه زندگی کردند؟ آن پسره که تنها و فریاد اعماق تن، چه لذت بر آن پرستان آن متوشان شهفت که از تن چون، توی پرواز سردهند تو ببین چنین روزگار و خاموش دم نزن که گر زندگی نیز رویت خجل فریاد مرگ سردهد چه بسیار با چنین هم رزمان که جانند و به هزاری هزار دیگران هم بند و هم پیاله ما در این پرسش و این دالان و این راه پیمایی و این سیاه چال دیگران گاه من به چهره آن پدر در و سرود زندگی سردهیم و گاه همان دخترک چمن شود و گاه هم پسر تنهایمان که ناله مادری سردهد و روزگاران که گذر کند و ما که در پی جورهی از تو دست به پرسش و پاسخ دهیم و بران هزار توی گذشته نبش قبر کنیم از رنج دیدار رخساران میت به خون خفته عشق سردهیم پس از گذر چنین تلخ، روزگار، خبر خوش نیز به ما آمدن کرد و در آن دخم روی خوش به دیده نظار کردیم. آن یارمان و مسرور جز از رفتن به دیار دورده سرداد و ما از جوینده پناه دیگران هل هل سردادی مکام تلخ خیش به خوشی این خبر شیرین کردیم. آنبار که من سخن با آن یاران پیر ایران زمین کردم و حال آنان جویا شدم نیست، خوشی آمد. که آنان سرحال و سالم زندگی گذر کنند و کسی به واسطه ما بیش از پیش مزاحم آنان نبود و پس از پایان چنین ارتباط تلخ، گذشت کام و خوشی به ناخوشی مبدل احوال که ایران چه باشد این سرزمینی که از دوری این تهمینه سرخوش است و هوای یار به سر نمی و بیمن و هزاری چون من چو دیگر زمان گذر کند گذر کند مردگی را که چه که از برتر بزرگ طرز تو خاک آمد و تو از رفتن آن غمناک جشتی از آمدنش سرفراز؟ چهکس چه که برابر به تو داد ای سرا و این ام و اندوش چه سبب بر این راه ما چندی نگذش از فراغ یارمان که آمد خبر از پناهگاه بر این دخت ایران و حال فصل تغییر و برآمدن از این سیاه چال دور ترز وطن است حال دگر ما عزم رفتن به سرداریم چون پناهنده دیگری به سرای اجنبان پای بگذاریم و گذر کرده اون ریز ما در این سردرگمی و فرجاممان ترک قربت به قربت دیگری است. گذر این روزگاران در این غربت که یار به خود دیدیم و تمام آن تغییر کرد و حال به نوع قربت دیگری به خیشتن ببینیم. دورتر از پیشان آن تو گو برما چه خواهد گذشت، چه روزگاران به پیش روست. این سوال ها بر سر شبانگاه و با آمدادان بی پاسخ پرسه شد تا ببینیم و به تجربه پاسخ گوییم. چه بسیار گفتند و شنیدیم از این سرا و حال دیدیم چنین بار این سرا را. گذشتگان ایرانمان از ایرانمان گفتند و آیندگان شنیدند و ما که به نظاره نشیدیم این چنین آنان گویند از این به مهدت تو والا و هر زمان. نماد چنین تجدد برج عظیم و نماد آن روزگاران پیشتر چنین مردمان در آن دیرباز در آن روزگاران دور ایران سرا و آن مردمان تشنه بر یگان تقدس آزادی چه گفتند از آن هماسه که به صدای والاگو هر رفت و خون رو بود چنین آرمان و این چه تکرار تاریخ و بیچاره تو قربانی شده در راه انسان و رهایی چه تلخ و سخت سخن گفتن از تو هر روی و به هر کجا که از ما چنین دور مانده و قشتی به جستجویت و قشت به نهان کشتان دند چه مرز بر تو گذارند و آنکه تفسیر کردند راه دیگران شد چه تلق که کس بران مرز راستین تو ندید و قانون راستین تو نگفت و سالیان کسان اندرخم یک کوچه در سوداید از تو چه خواهند؟ با چنین مرز و قانون از آن دیگران که بر خیش و تو احترام نکردند و تو را به زیر پای نهادند در این سرای ما پناهجو و دور از آن ما موطن چنین در فکر و اندیشه و و روی آن خاک نفرین شده گوییم و هم بشنویم و حال که خسته از آن مردمان به دورتر پناهیده ایم هر روز در این خاک خیش دورتر از تو آرمان کشه سود در این دنیای نابکار از تو سخن جز از برای خیشتن خیشتن خواهان. مرا چه کار با آن سرای خیش که صاحب شدند و از آن مراز خود راندند و حال دور از آن دیار چه از آن جز درد فراغ و چه خواهیم بر آن؟ هر لحظه دوریمان دورتر کند مراز آن خاک و دل سرتر از دیروز جز آن مرد و زن پیر. آن یاران با وفای ما را چه کار با آن خاک؟ که از همه چیز رخت بسته و جز برای خود کامگان نخواهند به دیگری رهایی و چون چه بسیار و گاه گویم جهان چنین غرق در این روزگار است و گاه سرکش چنین فریاد ظلم سردهد و گاه سربذیر نجوای ظلم کشد تو گویی چه خواهند آن خیل مردمان به سرایمان و فریاد کشیدند همین ذره کفایت کند بر آنان گر درب رهایی گشوده شود و یا فراتر از آن من این پرسش پاسختم و هم از آن دورتر شوم که آنان را نه این مقدار که کمتر از آن سیراب کند من را نباشد بر آنان چنین کا چالش زند پر بود و هزاران پرسش هزاری پاسخ ز خود که ما را دور کرد از آن سرا که دور کرد ما را از خود و چنین گشت که دیگر فکر بر آن نیز ز خود رو بودین گاه سخن با آن یاران پیر و جویای احوالشان ریشه افکارمان را به هم میتنید و گاه اخباران دیار ما را به تعمق آن روزگاران وامی داشت و در کشاکش چنین تلاشمان دوری جستن از آن تعملات بود هرچند یه تلاش بی فایده به نظر آمد ولی که مسبب روزگاران قفلت از آن خاک حداقل ظاهر شد و تصمیم ما بران که برای رهایی باشیم و فکر دور از آن دیار در همین دیار به راه اهداف دور چنگ زنیم و در این راه پر افتخیز گام برداریم روزگارانی در این سرا زندگی ما گذر می کرد و جای پایمان استوار می شد و با مدد تجربه گذشته زندگی دوباره ساخته بودیم و چون روزگاران در ایران بران شده تا مدد رسانی بر دیگران در این راستا با دیگران آشنا شده که نزدیکتر از هرچه هموطنز ما بودند به بنیادی روی آوردیم که مددش آن زنان در فقان و شکنجه بود همانان که به تبعیض زاده گشتند و در خشونت بارور و حالان که بهرکشان برده کردند اینان و بر گرده کمجانشان سوار. آنان به مردگی کشندند و شنیدیم از اینان و چه بسیار دیده این. حال عزم همان رزم پیش است که عرضشی والاتر بدارد از آن رزم بی آرمان گذشته و ما که این بار آرمان به روی من و راه به پوی و عزم پرز درون من و این رزم ثمر دهد هم از آن که تشنه مدد بر دیگران و همانان که بر این کردار ما دلخوش و با چنین مدد رها از این هرزگان توانند زندگی گذر کنند این چنین یار که من جستم و بر این وادی گام نهادم دیگر بار زندگی ما را عوض کرد و امید رویش را دوباره به ما کرد چه سختی و تلخی که با لبخند آزاد گشته و شیرین و سهل شود. آن کس که تن سپر طف کرده و جای زرب و به تن خریده و سالیان مسکوت چون هم میهمانان مرده زنده است و این چون من که بیدار کنم همو از این خواب غفلت و برخیز از جای و دوشادوش ما فریاد سردهد و به مدد از توان خیش نغمه از آزادی سر کند چه تلخ که چنین رهایی به آن سرای نفرین دمیدن نکرد لیکم به ما روزگار چنین خوشک بیدارگر یک تن و آزاد گشته یک ملت شدیم که یک تن به دیدمان همان ملت در دربند است. دیدن آن زن چه ساخت دوباره من در این روزگار مدتی اندک در این روزگار آن سرایقم گرفته به چشمانم آمده و دوباره همان نقمه از آن دیار به گوش میرسد زنی دیدم که تن رنجور زخمی از شکنجه آن هرز پرست زشت خونین و تکیده است لب به سخن و اعتراض نگشاید شاید از پاسخ تفره رود. من به آن آشنا گشتم، سخن بر او راندم و به چشمانش ایران برابرم بود چون وطن پیر خیش که نبیند چنین زجر و سختی کام برون نیاورد و دم آدم از اعتراض سر باز زند از من سخن بر و گشودن راه ها از چاه و آنکه از این سخنان بگریزد زد و نشنفت و سخن براند آن دیار به چشمان آمد و آن روزگار به بطن چنین زن درمانده ای که بر رنج گذران کند زندگی را به کهترین احترین سرخوشی سرمست و شادمان به حزیان زندگی مردگی کند چه گفتم و او که نشنید و گهگاه که لب به اعتراض گشود مرا پستد و حال آنکه که به من مصولی شد از آن گریختم و تنهایی گزیدم. گذر نکرد زمان بسیار که آرمان به فریادم رسید و بران شدم تا بیش از پیش همت گمارم و او را از چنین درد و رنج رهایی دهم پس اگر با او به کلنجار نشستم و دنیای والاتر از آن به آن نشان دادم سخن از مردگی کردم و زندگی نشان دادم از من اصرار و حیحات که از او انکار، لیک تو آرمان مدد بودی همراه و هم هدف که نشسته دوباره برخواست و فریاد برآوردم. آن نشنیده و من گفتم آنقدر گفتم و خسته نشدم و حال که سخن از ترس همو به میان آمده و این شروع جنگ است. از تو گویم برو که نظاره نشیند و سخن نراند و به تکرار چنین مدعا بفهمد از و والا گوهر که زندگی فراتر از چنین مردگی است. دیدن چنین زنی در سرای غربت بیش از پیش مرا به یاد سرای من انداخت. بیشتر بران شدیم تا به آن رزم دیرین تندهیم به کنکاش ایرانیان دور از وطن پرداختم و دوباره نقمه ایران سر دادم از دیرباز با آنان آشنا بودم و تصویر زانان بر سر داشتم لیکن دیدار برابر به خود چیز دیگری دیگریست نخستین دیدارمان با هم آنان که قربت و چون من و دیگران تبعید بر قربتند مرا بر ایران روانه کرد و یاد آن دوران روزگاران افتادم این همان مردمان دور از وطنند که دور مانده از آن جاخت چو آنان به همان جنگ و رها و همان راهها و همان حرفها، دور و نزدیک به یکدیگرند. چه تصویر از آنان به سر دارم و چه بهره از آنان به رو و در رو. پدر به برابرمان نشیدان سخنان در کلنجار به مادر سردهد و آن مادر که فریاد خیانت خاندن دیگری سردهد. چه آن سیل اسیر در وطن که خواب و متحوش منفعل مردگی کنند، در این سرا دورتر از ایران چنین مردمان گذران کنند و بر خیال خیش زندگی کنند مردمان خفه در تاریخ و گاه خفته در مردگی و گاه بیدار شدگان بیارمان که اصول جنگ فراموش شده و در پی فروغ جان برکفند هیها چه مرک گیرها که آب در آسیاب دیگری ریزند و به خیال خیش در جنگند و حالان که این جنگ میان چه کس است و راه بر چه کس هموار سازد چه داند؟ گوش ها از این سوغان سو شنونده باشد هزاری دا که نه راه به پیش برد و نه تخم آرمان به دل دیگری بکارد و رو دهد که در پی مال نداشته یقه ها پاره کنند خوشابران مکر و مرگ و ننگ پرستان که چنین دشمنان ساده اندیشی به خود دیده و دمادم از شور چنین محبت بالیدند و این من که در این سرا و میان اینان چه باید کنم؟ از برای رسیدن به آن والاگوهر و تو گویی چه وظیفه بر دوش این دور شده از وطن است؟ آن وطن که مردمانش همچو همینانند و ما بیشترین نسانمان در خواب قفلت است. به صدای فریاد بخش اینان به پاخی زد و تو بر فکر آنان باش که خیشتن به خواب زده و سرخوش چنین مردگی کنند نه توفیر میان دور شده از وطن و درون وطن نه در خصلت و پندار و کردار و نه در عزم و رزم و وظیفه. سخن از همگان نگو که جهل است و جهالت لیک سخن از اکثر نسانهای من چنین بود و باشد و ما برانیم که راه بیداریمان من دانستن که همان فریاد رسای درون و برون از آن خاک است و چنین دوریمان من زه هم شاد باش و مرگ و مکر و ننگ پرستان بدان که فقدان آرمان است ظهور کند ما را به یکدیگر رساند و آن فریاد دانستم بیدار کند و همگان را بر آن بهروزی این سرا پیش خواهد برد آمد و شد کنم میان همیرانیان برون پرون از مرز سخن بر آنان برانم و سخن از آنم بشنوم بیشتر از پیش بر صدق این مده ها واقف شدم و بر عزم چنین تصمیم راغب از این رو چون دیگر سرمستان راه تو والاگوهر به راه فریاد در آمدم و صدای آن سیل در اسارت نسانهای ایران زمین گشتم چه تلخ ایران هم که در سنگر مک و مرگ به جنگ آمدند و صدایشان به کس نرسد گر ما صدایشان نباشیم و صدایشان به دیگران نرسانیم و آنان چه از ما خواهند جز همین که نجوایشان به فریاد بدل کنیم و صدای درگل مانده آن خیلی بهبند بند کشیده باشیم و این ملت در بند چو یک تن بود که در حال مرگ و جاندادن است که اعضای تن هر کدام به راه رها دادنش بر تلاشند این درونیان چون دستان به قلبسته در تلاشند و آن برونیان چون پای رها گشته زقل و زنجیر باید که تکاپو کنند گر خاصار رهایی چنین ملت در بند باشند و باشیم کتاب تخمینه اثر نیما شهست <شعص عواری> بخش دهم ده نقمه تکرار شکسته خواهد شد و سرود تازه‌ای به گوش میرسد این ندایان آرمانگرایی ما شیفتگان است این چرت هزاران ساله آدمی در خاک خواهد شکست و بیداری روی بر نسان آورد و این فریاد آغازگر رهایی جاندارگان است انقلاب خواهد رسید و ساختار زندگی ظالمانه به پایان میرسد این آرمان قوت دگرگونی هر ساختار هزاران ساله از درون به صدا درآمده و توشش سرفرازی زندگانی است و این کم بود که سالیان ما را چنین مسکوت و منفعل به جای خیش نشانده خواهد شکه است و جرقهش، آتش خورد و آتش زیر خاک سر شولور شده و خرمن جهالت مرگ و مک و ننگ به آتش خواهد کشید و این سراغاز دگرگونی هاست من از آن دیار دور بودم و نجوای آرمان به گوشم رسید و آن به فریاد بدل کنم که قوت بیداری همگان در خیش نهفته دارد گر صدای در لفافه و به مسلحت به گوش نرسد و آنان به خود راه پیش نبرند به تقیه خیش عرضه ندارند که سخن از آن والاگوهر چنین ظالمانه راه به پیش نگیرد و بی فریاد برآورد که تو هم صدای هم بگو به آن ایدال فریاد رسا سردادن است جای نگاه بر صد باری این سوی و گاهی آن سوی رزم با عمق چنین فاجعه است بشناسین چنین عمق رنج را و به رزم با چنین عمق پرفساد در آی و به یک راز رازجای برکن و این بار بزر رهایی به کار و آرمان خیش به زودی دریاب بخوانم از آن سخنان و چه مپوت من که صدای در گلومانده ی خیش از آن فریاد آن تن بشنوم. و این چه آرمان که سالیان به دل بود و کس چنین فریاد برون آورد و بر برون بینم و او در خیشتن رهایی برایم معنا شود چه فراتر است و باشد در این دنیا چه آرمان چنین لایق جان فشاندن است که زندگی هدیه دهد و فریادش جان جانداران و فرجامش پیروزی دردمندان چه از این والاتر بدیدم و چه از آن والاتر سخن به گلو مانده برای این والاگوهر بجنگ و فریاد بکش که این در گران به تو آنچنان نزدیک که با آن زاده شدی ز تو آنچنان دور که ظالمان دور کردن زان به تو چنین هدف که زنده ای به کسب آنگاه انگاه مرده شوی به فراغ آن. نخست از آن خواندم و چیز در نیافتم به کنکاش خیش. به کنکاش خیش غرق چنین مهنا کردم. زهر روحی و به هر واسطه به ادراک آن تلاش و به هر کوی و برزن از آن دیدم. به آن همراه شدم. به کس تسلیم نشدم که فریاد چنین بود و تسلیم نشدن به دیگری و سربرف راشتن به راه باور خیش این رزم از درونمان آغاز گشت و ندایش به گوش همگان رسید و من آن نغمه خوشاواز شنیدم خود شیفته بر این مرام راه نجات در آن جستم که این عمق است و راهکار نهای ماندن در آن و حال چون پای رها شده از قل و زنجیر باید که تقلا کنم این نسان در مرگ از چنین رنج برهانم به تقلای خیشتن سیل در خواب ماندگان بیدار و بشورانم من در این قربت و دورتر از خاک و سرای خیش صدای آن آرمان والا باشم که او صدای در گلومانده چون منی را نجوا کرد و من نجوای به گلومانده او را فریاد باشم از آن روز دورتر که تمثیل وطن در آن زندیدم و به مددش شتافتم به سماجت خیشتن زخاب همورا را برخواستاندم و به راه طلب حق خیش واداراندم. به سریده ها داشتم تا وطن به گل نشسته را چون این زن به سماجت خیش بخیزانم و از این خواب هزاران ساله برخیزانم و حال در این برهه از زمان آن نجوای از آرمانگرایی دیگر پیش از پیش بران شدم که بر مدعای خیش سهه گذارم و با عزم جزم به راه چنین هدف والای گام بگذارم آری از آن روز که دریافتم این انفعال در خاک ما به دروژ و علت هست نخوست ندانستن و پس فقدان آرمان بران شدم که بدانم و بر دیگران نیز بگویم و حال که آرمان سر بر افراشته این رزم به یکدیگر گره خورده و همیار یکدیگر است که هم بدانم و هم به دیگران بیاموزم که اینان دانند چه خواهند جز رسیدن به آن آرمان که چنین بیدار شود همان تن در خواب رفته و همان غیرت و جسارت و شجاعت به خواب رفته از چندین هزار سال نشر چنین افکار و بازگو کردنش ترین راه چنین رزم بود و هزاران راه دیگر به پیش رویمان لیک همین راه سهل ما را به دروازه‌های آن هدف والا می‌رساند و از این رو باید که تلاش کنیم و در این راه هزینه می‌کردیم و بر آن قدرت می‌تاختیم سخن از سیل نسان‌هاست که هر کس به زبانی سخن گوید و زبانی فهمد همان که لحجه خیش گوید و همان کس که گویش خیش آنکه زبان خیش گوید و آنکه روان خیش نتواند بر همه کس یک تا گفتن از یک راه که پیش نرود این کنین رزم بر ما با هر کس به راه و رزم خیش سخنگ و چه طالبه است بر او در میان بگذاریم از آرمان قصور نکنیمان آن محور گفتار باشد لیکم به فراخور آن کس که در نظاره ما نشیده با او سخن گوییم و بر آن بیاموزی ما از آن بیاموزیم. نیاز چنین گفتن ساختار متشکلی خواهد که بر همه کس و همه جا رسوخ خوند و بر همگان بگوید و از همگان بشنود آنکس کس که بر آنان سخت خواهد راند از خیشتن آنان است و بر برانان نزدیکتر از هرکس به زبان همانان گوید و به روان همانان سخن از برون است و شنونده به درون نشسته لیکم به خاطر ندارد دوری میانمان که این نزدیکی سخن دور کرده و هزاران فرسنگ فاصله میانمان به همان پراکندگی درون مرز ایران به برون شتافتند جو در آن سرای غم گرفته دور از هم هر کدام ساز خیش سر دادند و این ما و آن آرمان که سخن از هدفی مشترک زنیم شاید که راه متفاوت هم باشد لیک هدف و دلیل آمدنمان زیر یک بیرق است این چنین بیرق که همگان را به زیر خیش درآورده و زنده کند و نسانهای مردد در راه زندگی را چه اتاک تشکیل دادیم و همگی سخن مشترک گفتیم به نحو و صورتهای متغیر گاه زبان شعر سخن گفتیم گاه به زبان آواز این اقیانوس که ما ساختیم هزاران رود بر آن سرازیر شد و فرجام که هدف رهایی بود در خیشتن داشت سبب به بیداری خفتگان خواهد شد سالیان دراز برون و درون این خاک هر کس به صدای خیش فریاد زد و پس از گذر زمانی هر کس آرمان خیش فریاد زد و در چنین شاه های متحد به همدیگر شد چه وظیفه به دوش که چنین آرمان به دلها زنده کنی؟ به واسطه یه چنین اندیشه هاج سارت به دلها بپرورانی که به روز رهایی برخی و مرگ و ننگ و مک پرستان به زانو درآوریم. از این رو هر کس به هر باور که داشت مبلغ بود و آن آرمان به دلها روشن میساخت. در این شاهراه رهایی همپیمان هم پیمان که در چنین اعتلاف راه بیداری همگان نهفته است و هرکس کس به خیش چنگ زند و مجبور به اطاعت دیگری نباشد. سالیان دانستند راه بیداری و پیروزی چنین اتحاد باشد لیکن چگونه اعتلاف میان دو دشمن خون به خون هم که هیچ شاهراه میانشان نیست که اگر هست هزاری اختلاف میانشان آن مسدود کرده و بی اعتبار باقی نهاده است لیکن چنین آرمان که نجوایش به گوشمان رسید دگران شاه راه صاف نتواند کرد و به هر کس و هر باور توان رشد خواهد داد که چگونه زاده شدند و از خود روبودند آنچه حق حق برخیش بود و گذاف گفتند که حق راز کسب به و سپس بر آن تخفه داری که این حق حزوست. لیکن در چنین آشفت بازاری که نام جهان به خود گرفته ما دگربار و دگربار باید بنگاریم و جهان را دوباره از نو سازیم که سالیان ایتار و پودش به دروغ و زشتی بافتند و در این چاه عمیق کنونی همگان بینداختند گهگاه سخنان من خود معنا نشود و نیاز بر تفسیر است چه سخن گفتند که خیش حق مطلب بیان ندارد و دیگر بران دارند که از آن بگویند و بران ببافند و آن را به گوناگونی مزاج خیش قرائت کنند. شنیدم در این میان دیگر بار صدای آن مرد و زن پیر یاران که درون مرزها یادگار و خاطرات منند، در این راه اتحاد به جای برانان که چون دیروز بر یکدیگر بتازند و برهم بشورند و اصالت این چنین رزم چون دیروزها به خاطر نسپارند و شادمان از چنین کنش همگان مرگ پرستان ننگ خود صدای آنان شنیده و چون اینان هزاری به کنار خیش دیدم ننگ نوش دارد مثلا آن اکسیر رمز و راز به یک بار اینان را متحد و همگون کند جان آرمان والای ما آن گوهر تابناک اینان را به اعتلاف وا دارد که خیشتن بسنجند و راه رهایی از این کارزار چنین کار است و چه کس بیش از دیگران شادمان از این وضعیت نابسامان جز همان ننگ پرسان این آرمان والای ما آنان را به دور یک میز نشاند و چه بسیاری که بران باور دارند و جانفشان چنین هدف والایی شوند و آنان که بر آن معترف شوند و به راه برافراشنش خوشاخ آنگاه که سخنی با آن دو یار میراندم و در آنان نیز چو دیگر باورمندان نشاط و دگرگونی به نظاره نشسته بود بیش از پیش به پیروزی خیش نزدیک دیدم و از بیشتر جذب شد و قدرتمندتر گام نهادم به دور میزی نشسته بودیم و سخن از آن هدف والا و راهکارهای آنان گوش فرامی دادیم که ناگه خیش را به خواب گیدم که به بیداری بیننده آنم که چگونه از هر باور و مرام به دور چنین میز نشیده و از یک هدف سخن رانده و این آرمانان دانستن است که ثمره و فرجام از چنین روزگار درخشان برای آیندگان است به نسبت دیروز بیشتر دانستند و متحد شدند و آرمان جاری همچنان ادامه دارد و تلاش در چنین راه وظیفه بر دوش یکایی که آزادگان است لیکم به موازات چنین تلاش که ما را به بیداری دیگران سوق میداد کار دیگر باید که به انجام رسد تا این دگرگونی بنیادین به سرعت شک گیرد و همگان از اسارت برهاند و آن تشهیل ها برای راهبری چنین رزم است. چه هیئت‌های بسیار که تشکیل دادیم برخی درون و برخی برون مرز به راهبری فراتر از دانستن لیکم به موازاتش همت گمارد و برای روزهای واپسین تدارک خیش بیند چنین حیعتهای ما متراکم بود از یکدیگر و تعداد بسیار زیاد چه آرمان واحد داشت و افکار و باورهای متنوع که از لطفان شاه اتحاد به کنار یکدیگر نشیده بودند و با هم آواز یکدیگر و سرود رهایی سر می این حیط به سرعت اعضایش جای گذیم می که هم شناسایی نشوند و در هنگام بحران قدرت اجرایی بیشتر به خود گیرند که با بزانو در آوردن یک تن ساختار کلی بزانو در نیاید و به کار خیش ادامه دهد. مرز میان شجاعت و حماقت رعایت میشد گاه که نیاز به شناساندن خیش بود صدای فریاد میآمد و گاه که مدد بر نهان شدن بود صدای از کس برون نمیداد. و چنین هربه ها چه سخت کار بران اجنب پرستان کرده بود و در سوگ مرگ خیش نشانده بود. هیئت‌های های مرز به راه کارهای تدارک جنبش‌ها و کنش های بخش دل بسته و همت می گماردند. و هیئت‌های های برون مرز به کارهای مدد رسانی به جنگجویان و آزادگان که گاه مالی و گاه معنوی بود و این معنویت فریاد ما بود که همان راه آزادگان به پیش گرفتن در خیابان و فریاد برآوردن است. من نیز چو دیگران بر این آرمان و هدف اوتور بودم در میان حیطی از برون مرز نشینان صدا و گفتار راهکار ارائه می دادم و یکی از این راهکارها که به تثبیت نیز رسید راهکار در کارزار شد چنین بود که در روزگار دگرگونی ایران به خیابان آمدن آزادگان برون مرز نشین ایران عزم رفتن به ایران کنند و از این خیل برای فشار بران اجنب پرسان مدد گیرند چان روز که شجاعت پیشه کردند به کار آمد که اتحاد همه ها را ریشه کن خواهد کرد تو بران فکر دار که پنج برابر جمعیت بسیار کشورها عزم بازگشت به ایران کنند و چه حیحات و مرسیه بر این مکر و مرگ و ننگ پرستان بماند این صدای من بود و چه بسیار که بر این ایده سهه گذاشتند و در پیش روی آن آزمودند که یک بار فرا این برون مرزان را تا قدرت آنان به نظاره نشستیم و یک پارچگی آنان را بسنجیم و این آزمون به زمان خیش مکول شد تا قبل از عملی شدن چنین ایده ها به راه آرمان رهایی پیش کنیم و جافتان آرمان و اتحاد را به نظاره نشینیم. در اون مرزان نیز هزاری ایده داشتند و یکدیگر مطرح و به راهش برهان آورده و سخن میراندند. و چنین هربه ها برای روزهای واپسین ذخیره کرده بودند که اتحاد و همفکری به روز کارزار رهایی را به ارمغان آورد و آن اجنب پرستان را به زانو درآورد. این هیئت‌های عریض و طویل در همه جا و میان همه باورها ریشه دوانده بود و توان بر نبود که همه را قل و غم کند و صدای راهبری را قطع که اگر هم روزگاری چنین می شد راهبری این راه رهایی به برون منتقل دوباره از نو در اون حیعت تشکیل می کرد. تنها شاهرا اتحاد همان آرمان والا بود و کس دوان ادول از قانون رهایی نداشت و فرمان در راستای چنین آرمان والا یگان راه رهایی جانداران بود چه ها به زن برای برون مرز نشینان بود که یکی از سختترین آنها کمک مادی اینان به روز کارزار بر ایرانیان در جنگ خواهد شد از این سیل هرکس قطره ای مدد رساند چه درگاه بیکرانی به ایران سرازیر خواهد شد. حیعت هر روز قدرتمندتر از دیروز به راه کمال در پیش بود. این چنین قدرت نهفته در شرف به کارگیری بود و هزاران ایده در کارزار رهایی ما به درون از برون مدد رساند و از اینان ملت واحده بسازد که آرمانشان همان رهایی و به فریاد در آمدن است، و آن طلب کنند و به آخر بر چنین تقدس والای خواهند رسید. کتاب تمینه اثر نیما شهرساری بخش یازدهم. به روز کارزار نزدیک بودیم و این به هر جای از هر کسی به گوشمان می رسید. این تحول نه تنها به ساختار سیاسی که اجتماعی این ملت نیز دگرگون خواهد کرد و آن گوهر والای به منای راسین خود حکران خواهد شد چیزی با کنشی بر آن سرزمین آمده بود که سخن آن هییت و آن ملت به یک صدا درآده و آن نجوا را دیگری فریاد میزد و آن کس این فریاد را بر دیگران نجوا می این زنگ دگرگونی بود. من هر روز بیشتر از پیش بر این باور می رسیدم که تا لحظه ای این تحول شک خواهد گرفت و ساختار این ظلمت خواهد شکست. آن روز که با جوانی از درون هم کلام شدم و پروراند شدن آرمان به دلشیدم که فریاد آزادی سر و زندگی بیچنین آرمان برایش مردگی بود دانستم که آزادی در راه است. این آرمان مرا از انفعال زدوده بود. هرچند در برون مرزها توان یاری به همرزمان بود لکن مرا تا به این دوری و فراغ نباشد که یاران و ما چنین نظارگر و مدد جوی باشیم از این رو ازم جزم کردم که به سرای خیش بازگردم و دوشادوش همرزمان تاریخ بسازم و بر جانداران و آیندگان از این شهد والای آزادی بنوشانم. چه روزگاری از آن دیرتر زمان گذشته است که این پای من را دور کرد از آن سرزمین و پریاس بی آرمان به سرای قربت رساند و با چنین دل شکسته از هرچه نام آن سراداش دور شدیم و حال دگربار همان پای و این بار به مدد از آن آرمان والایمان به سوی دیار خیش نراه که پرواز می هیچ راه دگر جز آن راه آمدن به ما نبود و این بار چون دیرباز همان مشقت به دوش کشیدیم و است که مالا مال از امید نه به سوی قربت که به سمت دیار خودمان و نه مسکوت که با فریاد جز این تنگ که پر از آرزو گهام به راه وطن نهادم حیعتی به کنار خیشتن داشتم که هم قسم چون من به راه آرمانمان گام برمی داشتیم. حیعتی از برون نشینان را به درون می بردیم و فریاد را به میدان رزم سر میدادیم این حیعت دلباختگان راه آزادی به مدد از آن آرمان والا به دشت و کوه زدیم و در انتظار کارزار خیش نشستیم. روزگاری از این ورود نگذشته بود که آن خبر تلخ به گوش رسید و دل گریست. خبر از فوتان دویار پیر این چه باری روزگار که دل پر از امید چنین به سوگ نشیند و ناله دهد از فراغ یار ماتم بگیرد. ندا و نجوای آن دوتن، سالیان به گوش کشیده و بردل یادگار و حال دوریشان چه تلخ و سخت. مرا تنها و یکتا به دنیا واگذاشتند. این چه تصادم شوم برانان که این گونه هم و هم هم دنیا را ترگویند و چنین روزگار را به نظاره ننشینند. و من نشنوم صدای که چه گوید از این اتحاد و این چنین آرمان که میان این سیل خروش جوانان شک گرفته و پاهای قدرتان، مرگ و مکش و نگ پرستان به لرزه درآورد. آورد نه آن یاران پیر که آنان یا به دین اتحاد آمده و همسنگرند و یا رخت رزم ستنگ کنده و به آن اقلیت خاموش بدل گشتند و یا بر مرگ کلنجار رفتند این دل پر از یاد آنان و آن روزگار زیبای میانمان و این تمثیل به کنار رفتن چنین آرمان های پوشالی و بیمنا که دیگر راهکار چنین تنگنا همین از و دیگر هیچ؟ پر از غم و اندو حال در دل کارزار نشیده و میان انبوه حیعتها رهبری به نظاره نشسته این که چه وقت فرصت تقیان است و دگرگون ساختن چنین ساختار پلزلمت نه چند ده سال که هزاران ساله است این بنای فاسد که ریختن و دوباره بنا کردن و بنای آزادی را پیریختن این چنین اخبار میان همرزمان که از دل راهبری برای تویان ادهی به اثارت رفته و در بند هند و برخی دیگر در انتظار مرگ نشسته و گاه سخن از این بود که اینان خواهند به روب و وحشت آنان بکشند و دوباره اختناق و خفقان به ایران هدیه دهند و این سراسر نهنگ پرسان که به مرگ پایه های حکومت خواهند نشاند و پای بر آزادگان گذاشته و به مرگ راهبر شوند این اخبار از هر سو شنیده میشد و این روش از این مرگپرسان بنای مبارزه با آزادگان بود. از این روز نگذشته بود که خبر از دستگیری دیگری می رسید به روز دیگر نیامده خبر از مفقودی آن تن دیگر. گستردگی چنین حیط ها توان بر نداده بود که به دستگیری کس صدای همگان فرو نشانند و راهبران منفعل و مسکوت کردند. که این کار از برای مهوریت این مرگ پرسان بود که به واسطه چنین اقدام وحشیانه به روب و وحشت چون سالیان پیش همگان بترسانند. اعمال وحشیانه ادامه داشت تا بالاخره اخبار علنی شد و شایعات به حقیقت رسید که خبر از دستگیری جمعی از آزادگان آمد و چندی نگذشته که خبر از تیربار بار کردن برخی و اعدام برای برخی و حبس هایطویل مدت برای برخی دیگر و در حال رسیدن، به اجرای احکام هستند این مرگ پرسان به خیال خیش هسته مرکزی هیئت‌های راهبری ساقط کرده و برای آهاد ملت ترس و اعراب نشان دهند و بر طغیان پیروز شدند شنیدن این اخبار مسبب شد تا تمامی هیئت‌ها گرد هم آیند و چاره کنند آن روزگار پیشتر که نبود آن روزگاران پیشتر که نبود آرمان و کسی برای هدفی والا به میدان نیامده بود چنین دندان نشان دادن از آن مرغ پرسان ما را به عقب میراند و منفعل می ساخت و این بار این چنین دندان نشان دادن آرمان گرایان را بشورانید و بیشتر مصمم کند که بدان اینان تشنه آزادی اند و کس جلودار اینان نیست و این بار ببینو بترس که راهبر هم همان ملت است و آرمان رهایی خیش و بدان که چنین طغیان نا ساختار شما به تاریخ پیوستگان که این ساختار هزاران ساله و بدوی را دگرگون کند و ظلمت ریکش برکند هایی بر, بر همگان هدیه دهد این چنین سخنان و افکار مهفریت همگان از توده که همانا همین حیعتهای راهبری بود به میان می آمد و آن را فریاد می کردند و حتی روز کارزار بر این مرگ پرستان مشخص شد به خط مقدم درهاییم و به مدد از فریادمان جهان دیگر سازی. دران آن ها جملگی بران شدیم که فردا را روز رهایی اعلام کنیم و بر همگان بگوییم که به میدان آیند و رهایی طلب کنند و هم قسم تا رسیدن به آرمان از میدان برون نرویم و از رزم خیش دست نکشیم. چنین پیمان بسیم و به دیگران اعلان کردیم. خیابان ها پر شده از آزادگان نه تهران شهر یک چنین رزم پرشکوه که سراسر ایران، این سرای تشنه بر آزادگی پر شده از این چنین آرمانگرایان که بیباک و جسور طالب رهایی خیش و آیندگانند و تاریخ به قلم خیش نویسد و از گذشتن درز گیرد و از نو بنا کردن به مدد از همین نسل بیدار شده که خیل بیشمارش جوان و تاریخ ساز و پرفروغ و والا و به آسمان است. این چه با فریاد ها به گوش می رسید و مرا غرق اش به فریاد وامی داشت، بگو آزادی آزادی آزادی، بگو آزادی آزادی آزادی. به خود ببال که تو چنین تاریخ سازی و جهان به ورقه ای از امید رهایی دادی و دیگر رهایی به تعریف دیگران نیست و هرکس رهایی خیشتن فریاد کند. من همان آزادم برخواستم آزادگان، تا به تو هدیه کنم آزاد ای آزاد جان بهر ایمان خودت فریاد کشبر هر جهان این رهایی آن هدف از هم تو باشد جانمان چه جماعت پرشور و جسور که به آرمان خیش باور دارد و به دیگران پر احترام نگرد و حال هم صدای به میدان رزم آمده و فریاد سر سردهد چند گام نمانده بر بران هدف والا که سالیان دیگران آن تشریح و تفسیر کردند و برخیشتن هدیه دادند و از دیگری رو بودند و حال نوبت آن که باز پسگیریم و و برخیش گرامی و والا نگهبان آن باشیم. این سیل خروشان به کارزار آمده بسیار بودند ولی کن از همگان نبود که برخی خاموش و پرباک به خانه نشیده بودند و نظارگر، اما این جمع جسور به مدد از آرمان والا از هیچ حراس نداشتند و به هیچ علت و سبب عزم رفتن به سر نبود. گاهی مرگ پرستان به میدان آمده بودند و حمله بر آزادگان کردند و آنان تا باورده فریاد کشیدند. جانمان در راه تو جانم رهایی. زندگی را من نخواهم بی تو آزاد باقیی. تیران شمشیرها نشکست این تنهایمان من را جان ببین با چشم خود فرجام این آزادگان را من که شوریدم به این ظالم بفرمان پس چرا بهر شکستن آمدی ظالم به میدان با هم و فریاد تا روز رهایی برکنیم ما ریش ظلمت عاشقان آزاد باقی این مرگ پرسان و خونریزان گاه سرهای شکستند گاه خون ریختند و گاه کشتند و آزادگان فریاد رهایی سر دادند و یک پارچه مدد یکدیگر کردند این تعسفون پرشکوه افسایش میافت و بر این سیل خروش آزادگان آرمانگرا افسوده میشد و از آن جمع خواب رفتگان بیدار میشدند و آن باکداران بی پاک به میدان میآمدند و فریاد رهایی سر میدادند. خشونت از مرگ پرسان جاری بود و آزادگان به دفاع بر می‌خواستند که از خیشتن اسیر نسپارند و آنان از این شکوه هراس به دل داشتند و میگریختند لیکن این هربه از ها انتها نداشت و این مرغپرسان گهگاه دندان خونی نشان می‌دادند که از خیل این آرمانگرایان و آزادگان بکاهند و مردمان به خموشی بکشانند محور چنین اعتراض و آرمان این آزادگان رهایی بود. آن معنای راستین که نکست آن شرح و تفسیر دهد که خیشتن آن بگویند و بر آن سه گذارند. لیکنان قانون رهایی که احترام بر آزادی جاندارگان بود، محور چنین آرمان شده و آزادگان به شور انقلاب كشانده بود. محوریت این چنین آرمان بر جان جانداران استوار و عذاب و ظلمت که هماره از دیرباز این چنین حکومت خون و ظلم و فساد از خاوران تا کهریزک و چه بسیار دیگر در خود داشت. منبع اعتراض کنش آزادگان بود. از این روی مرگ پرستان این بار با روی دیگر خیش همان مکر پرستان به میدان آمدند و آرمان آزادگان به میان کشیدند. آفهای بسیار شنیده میشد و آن کسان که محکوم بر مرگ بودند از این حکم تبرعه شده به میدان درآمده بودند. برخی از آزادگان در بند را رها کردند و فراتر از این به مصاحبه با زندانیان پرداختند و آنان از ادالت و آسایش در زندان سخن گفتند و از درون زندان صحنه به نمایش گذاشتند و چه بسیار دیگر از این نمایشها. ها که یار مچ و ننگ مرگ بودند از آسین خیش برون کردند و برانان میدان داده تا بدین خوده در برابر این شور آزادگان قد علم کنند آن سیاسیون در نمک خوابانده شده سر بر و قیش شده ای از آرمان های این آزادگان را به میان آوردند که اصلاح شود چنین پوسید ساختار هزاران ساله و شما به رهایی از آن گونه که ما میدانیم و بر شما مسلحت است خواهید رسید و چه بسیار گذافهای دیگر و فراتر از این آزاد کردن آزادگان در بند و نجات در شرف مردگان و گزارش از زندان و زندانیان این سیاسیون روز مبادا بودگان به میان آمده چنین خدعب و هربه از این مک پرستان چالش به میان آورده که آیا این همان آرمان است؟ و ما رسیده آن آزادی و این همان دانش و دانستن و دانستن بر دیگران است که در آن روزگار دورتر از این گر به قدرت به راستی گفته و شنیده بودیم و امروز سرنوشت که خواستارانی رقم خواهد خورد. این آرمان والا رهایی عظیم چه فراتر از این چنین وعده های بیمعنای مک پرستان است که به مرگ و ارعاب به هدف نرسیده و حال به مک راه پیش گرفتند. گر تو فراتر از این چه هست بینی و چون خیلی انسانها سعت بین مباش و به عمق بنگر هدف آنان بفهم و بدان که راه بیمناست بر آنان که هدف از آنان مهم و اصالت است راه گاه به کشتار آمد و گاه به رهایی آن هدف است که در این ده سال که از بد هزاران چنین به کشتار و غارت و تجاوز و بدبختی و ماتم بوده و هست و خواهد بود اگر تو تویان کنی و هیچگاه پس نکشی و با تمام جان راه آرمان خیش که فراتر از این کاسی هاست پایبند بمانی همه دنیا از آن توست نگویم رویزش میان آزادگان نبود که چنین سخنراندن راندن خوشبینانه است لیکن تعداد آن رفتگان اندک است همان اندک نیز بر ما گران هم سیل آزادگان به میدان مانده کماکان به رزم خیش پایبندند و چه زیبا بر من که در چنین روزگارانی در این وطن به خط مقدم نشسته و فریاد رهایی سر میده حال تاریخ به نگارید و آگاه باشید که چنین رزم والایی نه تاریخ ایران سرا که جهان و جهانیان عوض خواهد کرد و رهایی به جهان پیروز خواهد گرداند این خود از مک پرستان راه به جای نبرد و اینان که به چنین کار هیچگاه رضا نبودند از کردار خیش ابراز می میکردند و این بار طوفان خیش به ما نشان دادند که این آخرین قدرت این مرگ و مک رو ننگ پرستان بود که در خیابانها همین کارزار و این خط مقدم ما آن آرمانگرایان و آزادگان که خیلی بیشمار نشیده و برخاست شعار از شعور سردهند و هماره سخن از آرمان و رهایی به میان آورند سیلی از مرگ پرسان برابر خیش دیدیم و خیش را در آن کارزار به نظاره نشینیم و در پی آزادی جان به کف آماده جنگیم و آنان به طعم عمر بیش و زر و زور بیشتر به ما حجوم آورند و یاران به یاری خیش همت گمارند و از اسارت دیگری ممانعت کنند حجوم این خوخارگان گاه چه سحنه دلخراش که نساخت لیکن دل به سودای رهایی خیش و آیندگان است که دیگر نبینند چنین خوخاران در کنار خیش و به زندان چنین زندانبانان زندگی به مردگی بدل نکنند. در این کارزار بود که من نیز چون صدها آزاده آرمانگرا به بند در آمدم و در راه آزادی خیش به اسارت برده شدم. کتاب تحمینه اثر نیماش اصواری بخش دوازدهم. چه روزگاران که در بند نشیدم و پریه است از آن هیچ و بر هیچ به دست آوردن خیش فکر دوختم و حال در این بند به ظاهر اسیر و در باتن رهاتر از همه آزادگانم ندگر یه چه جای دارد به میان ما؟ که در بند مسرور و مغرور از این فریاد والای خیشتن و این زندانبان که خیشتن اسیر چنین آزادگی ما دیدند تو آرمان چه کردی و چه ساختی از این خیل مسگود که برای آزادی تن به اسارت دهند و در اسیری و آزاد و راد در رزم سرکش و مسرورند مرا به اتاقی برده آن کس که دل سپرده بر آن و سر آن مرگ پرسان است به دشنام و ضرب و شتم نتوان تخریب چنین روح سرکش من که چنین ضرب‌ها به تن چون نجوای آزادی به گوش ساز کرده و دل به پرواز در آمده است در آسمان آزادی است به اتاقی نشستم و آن دشقیم مرگ پرسان به رویم نشسته است به دشنام زبان گشاید به ضرب کنش دارد. و من که به سخن فریاد زنم و بیکنش به زیر پای نشاندم چنین فروهایگان را آمدم میان هم رزمان والای خیشان جمع آزادگان که در بند شکنجه شده اند. حال یک بار به مدد از توی والا آرمان یک صدا و یک دل فریاد سرده هند ننگ بر این ننگ پرستان زمانه آزاد هم ایرانی و هم ملک و تخانه برون و درون از این زندان دیگر همگان آزاده و بیپروا فریاد رهایی سردهند و گامی نمانده برای رسیدن ما بر آرمان خیشتن که هیچ نتفاند و تاب و توان ایستادگی این سیل ندارد از این اتحاد پرخوف ننگ پرستان به نظاره نشسته و توان هجوم بر آزادگان ندارند جمع آزادگان در این زندان مسرور و یک پارچه فریاد زنند ما را تو ببین ننگ پرسان تو به زندان آزاد تر از هم تو هم سرور و یزدان که شور و تغیان که حاکم بر سرای ننگ پرسان و این یاران مرگ را به کناری خزانده این آزادگان هند که بیباک فریاد رهایی سردهند و آزادی خیش طلب کنند که طلب خیش از این فرومایگان به زیر پای چنین اختدار ما با هر آرمانگرای دیگر درون همین زندان نشسته بودم که صدای آزادگان به درون آمد که فریاد زدند این خیزش مردم تو بگو قدرت رزم است پایان میکشد ظلم و جنایت که نبرد است این صدای همرزمان برون از زندان آمده و ما یک صدا به فریادشان پاسخ دهیم چه زیبا شد این چنین دنیا که رهایی دگر گامی به ما نمانده خواهد رسید آن رهایی مطلق بر همگان در چنین روزگاران بود که هم ما به درون صدای آزادگان می شنیدیم و هم خیش فریاد میزدیم که ناگاه بی آمدان خبر رهایی و پروپاشی این ننگ و مچ و مرگ برسان که از صدا و سیما به همه جا رخت نیز به درون زندان چنین شنیدیم که سران فرومایه ی ننگ پرسان به اسارت کشیده شدند و قدرت به دست سپاه و مچ پرسان مافتاد و از ملت طلب شده به خانه ها روند تا انقلاب ادامه یابد و از این اخبار گذر کردند، اندک زمان که ما آزادگان در بند رها شدیم و به خانه آمدیم. چه شادی فضاینده که خاک میهن پر کرده و همگان به شادباش یکدیگر سرخوشند. دیگر در خیابان کسی نیست، به آن دیرتر روزگار، تویان و همه مسرور از پیروزی چنین انقلاب از همان صدا و سیما خبر اسارت سران ننگ داده شد. و به تکمیل چنین خبر دادند که به زودی محاکمه شوند و به فرجام خیش خواهند رسید نفرت از گردارهای این خونپرستان در میان نسانهای این خاک از دیرباز بود و هست و چهر به از آن مکر که به چنین خودعی اصالت به فراموشی سپارند و با چنین فریاد تقیان فرو که این تحول نه از برای محاکمه مشتی ننگ است که والاتر از آن برای دگرگونی این نظام هزاران ساله است شنیدم چنین اخبار و دگر به یاد آن روزهای دورتر افتادم که سیلیز ما به بیداری نسانهای خاک بران شدیم و پیروزی چنین جنبش به همان بیداری و دانش آزادگان است که اگر ما کم کار کرده باشیم نبینیم پیروزی راستین و این آرمان والا به شکست محکومی. در نگاه برخی پیروزی میدم می و چه قیدن چنین نگاه ها که اصالت آرمان را در نیافتند و چنین در سرخوشند و این همان نقل بیخردی چه بسیار چون من است که نه نابخرد که شاید اجول و شاید کمتاب و حتی به اشتباه چنین فرجام ساخته این لیکنین شمایل از همگان نبود و ما دیدیم برخی که به عمق نگریستند و معنای آرمان رهایی دریافتند و این رابسان پیروزی نبینند و دستان نابکاران در این مکر و مکروخرد دیدند و حال با تیز هوشی به فکر راه و چاره برآمدند حیعتهای راهبری که چنین تغیان بر ظلم شورانده بود از چنین کسان توأم شده بود که به واسطه اتحاد میان همگان در آن هر فکری نقش داشت و کسان به رسیدن بر هدف پرکار در چنین ها بود که سخن از بخیان آمدن شد که نباید خیابان ترک میکردید و میدان بر برانان خالی که چنین روزگاری بر شما بسازد و از هدف و آرمان شما دور کنند. این سخنان مطرح شد و اکثر از آن منفعلان شد که چه روزگار سخت بر من و بسیار از آزادگان گذشت. چنین فرجام در فکر ما نبود و آزادگان به دنبال ای و حالان که تکمیل آن اخبار از سران ننگ بیامد که به حکم دادگاه به تیروار سپرده خواهند شد. که جرمشان نسخ و و چه بسیار از دورترها و دیرترها و تا به امروز آن سالیان آن مزار خاوران و کشتار بی امان از آزادگان این اخبار بیامد و به نگاه هزاری شادی بدیدم و چه تلق شد کاممان که آرمان ندانستند و بر این چاه عمیق بی افتادند آتش زیر خاک سر شولور شد و آزادگان در حیعتها به سخن بیامدند و حال دگر مرگ آرمان در میان بود که ما از برای رهایی برخاسته و حال فرجام مرگ آن رهایی دیدن نخواهیم کرد گفتیم و گفتند در این حیعتها ها که آرمان زیاد نبرید که سبب بر این طغیان همان بود و امروز به پاداش آن باید که به پاخواستن حیعتها ها به بحث طویل و در انتها بر شدن تا فرمان توقیان سردهند و مردم به خیابان آیند که قدرت از آن مرگ پرستان بستانند و آرمان خیش که رهایی بر همگان بود و دوری از چنین منش فرومایگان و مرگ پرستان بر آن مرام رهایی و آن آرمان جهان پایبند بمانند و محاکمه سران به خون سرانجام نداشته باشد چنین فرمان از هیئت راهبری گفته شد و دگربار آزادگان شوریدند و خیابان قبضه کردند دگربار بوی خوش رهایی به مشامم میرسید و آزادگان که به آرمان خیش وفادارند میدان به این فرومایگان خالی نکردند و به خیابان آمدند دو دستگی میان میانمان بود همانان که به رهایی ایمان داشتن چون من ای بودیم که هم خاصار گرفتن قدرت از مک و هم خواستار خون نریختن از سران ننگ و مک رو مرگ فریاد زدیم. راهمان من آزادگی تا جان به کفت باد خون آنان قاتل آزادگی داد. و دسته دیگری که خواهان گرفتن قدرت بودند، لیکن به مرگ آنان عشق میبرزیدند و به صدای چنین کشتارها به خیابانها آمده و فریاد میزدند. ننگ را منهدم کنیم و پس آن به هرچه ننگ و به دار و درخزان. به خود سخت گرفتیم و چه باز خواست ز خود میکنم. به آرمان والا پایبند نبودم جنخوس باید همگان را دانش میدادیم. و سپس به توگیان میشوراندی و این چنین پر از سرزنش خیش بودم که چرا چنین سخنان میشنوم و اینان به آرمانهای والای آزادی و احترام بر این گوهر تابناک باور ندارند و پس از آن به این فکر می که چه کس توان دارد همگان را بر این قانون والای باورمند بسازد جز به مدد از قانون سراسری و لازم به اجرا با چنین چالش که به فرجام در سر داشتم به خود می گفتم که تا نفس دارم به راه آرمان میرزمم و رهایی بر همگان هدیه خواهم کرد و امروز نخوس باید قدرت از مک پرستان گرفت و سپس به رهایی نهایی فکر کرد و در راه آن گام برداشت کمهاکان به خیابان بودیم و فریاد سر می دادیم و قدرت از آن هرزگان می گرفتیم پایگاه های قدرت یک به یک به دست آزادگان می رسید و چه شادتر بودم اگر دانش والاتر به میان دیگران داده بودیم به خیال راحت تر چنین قدرت قبضه می کردیم به هر شکل که بود سرانجام قدرت از مرگ و مک و ننگ پرستان ستان و آنان را به زانو در آمدند. به و حیله و فن و کشتار نتوانستند در برابر این آرمانگرایان توان بیاورند و به شکست قانه شدند حال لگر از این هرزگان رهایی یافته بودیم و به مدد از قدرت اتحاد خیش قدرت از این فرومایگان ستانده بودیم. چه کسی چنین فکر میکرد که نگذشته دور زمانی از آن روزگار که سیلی به خیابان آمدند و بی طلب هیچ از هیچ کردند؟ چه شاد بودند آن فرومایگان از این فقدان آرمان که نسانها را چنین درمانده و مسخوت نشانده بود. و حال که آرمان والای سر برفراش تمگان را بشورانید و قدرت از ظالمان ستانید حال که به چنین مرحله رسیده بود گام نهایی در راه رسیدن به هدف والای همان آرمانهای رهایی بود و ما که تاریخ خانده و صدای آن از دیرباز به گوش شنیده ایم، چه بسیار چون آن یاران پیر که هماره سخن راندند و من که خیشتن فراتر از آن خواندم و دیدم فرجام خونپرستان را بر آن آرمان ایمان داشتم به مدد از همان احترام بر رهایی دیگران برخواستم به این واپسین گام رهایی رسیدم و باید که بیشتر از پیش برخیزم و فریاد برآورم که رهایی نرسد چه هزاران دیگر بار اگر به آن احترام نکنی این وظیفه است بر دوش ما آزادگان سنگین که چنین رهایی به فرجام برسانیم و به آرمانمان پایبند برای رسیدنش همت گماریم از آن خونخواران رها شده ایم. و آنان به داتسران نشانه و محاکمه گر قاتلان شده ای. که برگ نخست این خاطرات در آن بین شروع شد و آزادگان کمی در آن بین دیدم و این من بودم آن تهمین رزمارا که سالیان به سودای رهایی جنگیدم و از برای رسیدنش فریاد زدم و در آن جای نیز باز آرمان والا از آن سخن گفتم آنچنان بازگو کردم و بر آن ایمان دارم و به مدد از قوت چنین ایمان به دین سان رزمیدم و هیچ زمان باز ننشستم. حال زمان ایستادم بر ایمان است و فریاد برای به کرسی نشاندن رهایی در آنجا و دهها ها چون نشست ناظر شدم و با صدای بلند از آرمان والای رهایی بگفتم و چنان فریاد زدم که رهایی جز به احترام بران آن والا طلوع نکند که این چنین ایمانی دارم و به هر جای چنین سخم خواهم راند. زمانی نگذشته بود که از اندام آن کجیها که سخن از آرای همه جانبه در میان بود و شک ساختار آینده در این پیرسرا و هرکس تلاش برای تبلیغ ساختار در باور خیش داشت و در این بین آن روزگار سرنویش، ساس و آتی سرا و آن دادگاه به جریان بود. به حیعت راه رفتم و سخنان آتشین ایراد کردم و گورصد کردم که رهایی به دست ما نخواهد آمد مگر بران احترام بگذارید و آزادگان برخواستند و چنین گفتند و پس از ساعتی کلنجار بران شدیم که به خیابان آیم و فریاد دهیم مرگ و خون می راندین آزادگی را، هموطن با مهر خود درسی بیاموز آدمی را. به خیابان آمده دسته های بسیار از آزادگان که به آزادگی ایمان دارند و با آرمانشان چنین روزگار رقم زدهند و حال بر این گوهر والا پای بندند تا سرایی بر رهایی همگان بسازند خیابان شلوغ و آزادگان فریاد و یک صدا مرگ و خون می این آزادگی را هموطن با مهر خود درسی بیاموز آدمی را هزاران هزار انسان ها به دل آرمان قلیان کند و چنین از درون فریاد برآورند و این آرزوی آزادگان است راه آزادی نباشد جز به آزادی چه راهش حرمت آزادگی هم انتقام و هم نآیش